المثنى وأشهد أن محمدا عبد المصطفى رسول المصطفى بعثه إليه داعيا وإلى جلاله هدية فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ما سلي مسيح حتنكر من استله از واجه های فارسی یا واجه های عربی نیست که ما استفاده می کنید. اون واجه که در استراح فارسی خودمون بکار می رهد آهنگه آهنگ, آهنگ مهمونه در واجه نامه ها یا فرهنگ های فارسی بکار کار برهد مسئله آهنگ یکی از مسائل روزی هست که های مختلفی در این جنه نوشته شده طلاب به قول خودشون در این مسئله گیچن نمیدونن حق با کدوم طرف دنبال حقیقت هستن در این معنی تیمون شهستین هدف این نیست طلاب یکی بردیگری غلبه بکنه یا مثلا بحث پیروزی باشه بحث اینجا ارائه ادله هست هر کدوم عدله خودشون رو میگن یک امتحانی هست حالا خوستان طلاب در دست ما اغده دارن و قول مریا گله دارن از این که امتحان بگیرین و سخت الان امتحان معلوماته اون استادی که سر کراس میاد تدریس میکنه و یک معلوماتی به طلاب ارائه میده الان باید امتحان بشه ح امتحان طلاب اون معلوماتی که داره چقدر میتونه از معلومات استفاده بکنه چقدر واقعاقعند میتونه کاربردی از اون علمش استفاده بکنه. ما در این امتحان شرکت کردیم تو اینکه را ببینیم نده چند میگیریم ح از اول و آخرش اینه که ما به حق برسیم ودف اینی که ما ذهن مولاستر بشه و بتونیم تشخیص بدیم که هر کدوم یکی اونایی که میگن جایزه یا اونایی که میگن جایزه نیست این خلاصه مقدمه اون چیزی که من میتونم در این سه چهار دقیقه فقط بهش اشاره بکنم خب این صفحه این میکن به صلاحه باشه که ما بکاره بریم آهنگی این کلمه آهنگ چیزون این کلمه موسیقی مخصومه در زمان پاس هرچنکه واجه یا مواصر یا واجه دوبلاژه کلمه آهنگ بست معلوم شما موسیقی از این در کلمه تو همون آهنگ آهنگ از هرچی بردیار نه آهنگ میاد بخش ستاکش قاعدنا اعوذ بالله این الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین و على محمد را و اصحابیه اجمعین سبحانك اللہ علی و قبل نتشه تلمدد سالران نبیس باللغب و خواهران شما... و برادران از سلام و حدیث و حدیث کردن حقیقتای شما من از رفت کنم از برای همه ما عزیز کردن و برای خواهنده حدیث کردن بایدوارید انشاءالله شما در خواهنده کتونی چشمتران به عنوی حدیث ما باشد بردین از سلام از اشکر دارم خدمت سربران و مزدگوارانی که این مسلس و این جلسه رو برگزامی کردن و امیران همون خدا من بنا توفیر بده که در آینده رسالت کارهای بانندی و در کداشتین بید انجام بدن و در لاستای بالا بردن دنیه این طلاق کام بده. و این مواقع در خورت هستی هست از طرف مواقع نشوشی و شورای این طلاق من من شون نحن منذره هست صحبت خودم رو متجن نکنم با شعر عمال شفی شعر عمال شفی شعر در باره آتاب المنبره بفرموت ادر مانکون تدر علم بصد ادر مانکون تدر من بعلم بمثلت و بالتواقل فنادر من تنادر في سكون حليمن لا تلحق ولا تتابل يفيدك من استفادت من اللكة اللظيفة والنوادر وإياك اللجوجة ومن يرأي بأني قد غلبت ومن, ومن يفاخر فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتداور این بدل مناظراتی که در دانشگاه بود، در واقع در بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها از بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها به بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها که بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها این بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها بحث‌ها در واقع یک کوشتتیگیری ی در این کوشتتی گیری ایندیلیی در ب کی که میشه این دوده که روده تماشا چیه جاده حاضری است. و در اون بحث برنده شدن و پرلنده شدن نیست به اندازه که درش بحث چیه بحث رسیدن تی سر برز ما جمله داریم داری در دماشاافقی با در همین زمینه. أدين مذنوم كيف كما كي ما لا نظرت أحدا إلا وتملنت أن الله الحق على لساني. ونرى في الشغلات أن مناظرها تختلف الصورة. ما هي مناظر مناظرية إيمية، هي مناظر تاريخية. فأسرتك كل نظمة أن ترك جنوبها سيدنا محمد لزيم ما. بقول لنا ابو كنت اخريده معنى اللذاء بقوله دا ماذا دارتش فاس ببنين دارت موسيقية موسيقية شيء موسيقى جعلبان هالدي باسم غناء غناء بالمد كالتالت غناء هالدي غناء بالمد داري و بالمتالقاس داري غناء بالقاس داري فالبان داري غناء تبقابل فاقنية غناء بالمد مابولات داري الصوت المندود از سمت الممدود دسمه حالا این سمت الممدود سوال از انسان باشه یا از حیوان باشه یا از طبیعت باشه یا از آلت و ابزار باشه بشم یک چی؟ بشم یک خینات ما منویشی داری به نام معازد وقتی می کنم معازد معازد جمع معزفه هست اسم آلت به معنی ابزاری که باش می نوازن ابزار نوازن درمورد کلمه موسیقی کلمه لاتینی هست موسیقی و در زبان عربی استعاء ترجمه میشه برگنا، بلکه زبان فارسی ترجمه خاصی نداره به نام موسیقی و شاید ترجمه آهن کلمه نتیجه اون باشه. مخصوصاً کدش دیگه باز نداره. بزرعت... در صورت حساب جامعی هستیم با بکنه که مقدمه در طفل کنید شکل که حکم موسیقی شما بر چه اساسی کنید اطلاعیو بر نخص حکم دارید یا اینکه که ابتدار بحث موسیقی که شروع شد تلمی غنه بحثمون اینجا فکر نتونم بیشتر بینیم. بحثمون پیرامون غنه واشد اون اصطلاحی که مرادب با موسیقی در انگلیزی هست چون غنه همونطور که گفتن صدایی هست که کش... کشیده میشه و ممدود هست صدای پرنده هست صدایی نمیدونه همه چیز تا صدایی انسان هست به صدایی انسان هم غنا گفته میشه و چیزی که ما در این بحث بهش میخوام بپردادیم بحث معازف از ابزار موسیقی هست تو که ساز گفتن یا معذقه و صدایی که از معازف توبید میشه آهنگ یا حالا به اسطلاح دیگر موسیقی یا صدایی یا نوا یا نوازشی که توسط ساز تولید میشه حالا از دزروهای ساز زیاده پیرامون این مسئله پیرامون بحث حکم آهنگ یا حکم معازف ما تقریبا نزده تا نص از سنت داریم از حدیث صحیح در این مطلب یعنی قوی ترین دلیل حدیثی است که امام بخاری روایت میکنه حالا بعد بحث خواهد شد بعد از اون بحث اجماع که همی مهمت کردن بعد از بحث اجماع فقه های عربه هستند و موقفشون در مقابل صداهایی که تزوه های افزار آلات نوازندگی ایجاد میکنه که همون که گفتم گفتم نصد حدیث بر تحریم، اجماع بر تحریمه و احوال اعیمه ارباد این خلاصه این چیزی که در سال شما بود. من در که من در که حالا قکم معاظف چیه؟ اینجا دردان تنگیر مرزا شد چون قدردان تاظرنا همان به منصورت منبولت اینجا منظور که آقای جوالی برمودن ایشون حرمت مصببت میشه به معاظف که صدایی که از امزار و آلام در میاد نظام در مورد صدایی که از همزاره در میاد صدایی که از پرده در میاد صدایی, صدایی, صدایی که از طبیعت در میاد والله تنعمه ثلاث مرات نعم والله ثلاث مرات فقد بالتعريف معنى نماز شده نماز و اهل نماز چیه اهل نماز صدای که از اطاعت در میان و اینکه حالا این صدا حرام هست یا این صدا حرام نیست اما جایی که در وقت نماز داخل قاضی در دست بهش اجازه نماز قاضی شری دیگه است میگه ان به عبادات تمنق يا التحرش بالاسم في العادة الإباحي. ما مصفي كيل منحت الفجأة جزء إباحاته، جزء إباحاته ما أصلح له الإباحات. أنا منذ أننا تربية قائد التحرش هذا بعض الحقيم ال SMB لاشاغ القموض والعجز الباجید و سعب المدعی و آئین و آنان مجمع كبت وفعل الحق قلب اُجراء الكبر fetched of Everyday شكرا بعد ماى بتدار المصياه مص sigu times النقوذر بأ مخصج تلد الى ال smells ما ی Jazz نے صرفتنا前American یک مسائل خشل the içerاء بлки که آقای محمود فرمایند که آقای هاشمی متقصد زیبایی باحت شاید ایشون میدونه من منظورم چیه شاید این یه نوع سوء فهم برای من مثلا من متعتقدم موسیقی به مطلقاً نه حرام است نه حلال است است پس چیزی راه به مرادات اش نیست. متعارف موسیقی مثل هر که من درشتان اونوارنی تداخلم موسیقی این من متافل تمام عیار نه. من هر ذوقی که نمی تونید بگه حق حلاله این حرف مطلق چون حق زدن مطلق الان نیست چون مطلق حرام نیست شما قران میگه نمیخواد بکنید چیز بکنید حلال نماز مستحب واجبه خوش بینی غیبت بکنید نمیگه میگونه حرام لذا ما بعضا في الامر في في الامر في الامر الموسيقي اما ليس مستقيم مطلقا قائله تحليل المطلق المستقيم لا وتوترك قائله ان التعريف المطلق اللي فيها شنو ده, ده, ده. ده. شما در یه ها به تقدیم موسیقی حرامی موسیقی های خلاقا حرام مطلق موسیقی حرام مطلق موسیقی حرام بحثه که جناب استاد کردن بحثه اینکه از در اشیاء عباده هست قاعده متفقه علیه هست از برای عبادات حرامه ولی که الان اینجا باید بازم تحدیم محل نزاع بشه آیا آیا اون دستوری که از شرمه مثلا مشروع حرامه آیا ترک کردن یه چیز حرام جز عادات یا جز عباداته اون چیزی که ها میگن ترک یک نوع عبادت هم هست که انسانی که مشروب نمیخوره مثلا به فرض در ازانش اجر و پاداش داره اون شخصی که نمیدونم دزدی نمی کنه در انجام دوزی ندادن دزدیش اجر و پاداش داره ما نمیگیم چون مثلا به فرض عبادته فارسیف نداره موش نه اون چیزی که شعر ناحیتش میکنه جزو عبادات محسوب در ترک کردنش اینشی دیگر در اقتدهی بحث باید بششاره بکنه میمونه بحثی که جناب صد که ادان البيینه على المددهی بله درسته این قادر ما قابل لگیم ما هم باید بیناو که خودمونو بگیم بیلی همونتو که می بینید حدیث اولیمون یکولو نبی صلی الله علیه و سلم لیكونن من امتی اقوام يستحلون الهر والحرير والخمر والمعازف. تا آخر این حدیثی که شما میبینید. حدیث که در نمودار هست ابو مالک یا ابو عامر هست بعد از ابو مالک عبدالرحمن ابن غم هست عبدالرحمن ابن غم شرکی در سطح بوننش نیست هرچنگ که درش اصطلاف هست آیا صحابی هست یا نیست بعد از ابو مالک یک طرفش مالک ابن مریم داریم طرف دیگرش اشعقی ابن قیس، از عبدی ابن قیس به پایین ابن جابر هست بعد صدقه، بعد از صدقه بعد از نجابر عدثمان نجابر دو شخص را یکی کنه بش و ده صدقه هشام بر از هشام این حدیث هم منتشر میشه هم ترشن که از طرف بش هم ما داریم از یک طرف بش داریم از یک طرف صدقه که این حدیث من در شهر بردم که روا کرده امام بخاری هم در کتاب صحیحش این حدیث را رو روایت میکنه الان میمونه مدعی که ادعا داره این حدیث ثابت نیست باید بیاد نزد شورای بده چه مشکلی داره این حدیث مشکل از کجاست؟ امام بخاری در کتاب صحیحش روایت کرده امام بخاری هم هشام نعمار شیخشه بالا از حدتن و اقبرانا هم ازش روایت کرده چه مشکلی را داره از لحاظ مرد و از لحاظ اطلاف این حدیث هسته سریحه در این که اشخاقی که هند اومد در روز قیامت و این چیزها رو میکنن. دل رو و دل دل حدار میکنند ببخشم روز بکنید کفل حدیث روی با حدیث شیخ حضرت رسول خدا که "دی سخنی را که هم ترجمه‌اش نمی‌وشیم هم نکش وارد از نمی‌داریم." حضرت دادن در صورتی که لحظه حدیث باش چشمه." حالا ترجمه‌اش بکنم بهتر برات. رسول الله صلی الله علیه و آله از امت من می‌آیند که زنا و و شراب و آهنگ را حلال میکنن و از آنها کسانی بر سر کودی منزل می‌گیرند." که چوپان آنها با گله خودش از کنار آنها عبور می کند و فقیری برای حاجتش نزد آنها میگیرد و بگو میگویند که فردا نزد ما بیا که الله آنها را در شب هلاك می کند و طور را بر سر آنها خراب می کند و از جمع آنها افرادی تا روز قیامت به میمون میمون خوب تبدیل می شود انتظارشان تعلق این که ما استناد خونه به حدیث خوب بود استناد میشوند به قرآن شون من لا قبل ما در تحريم و در تحليه انتروک مدرت را قد فصل لكم ما حرم عليكم و الله صلوات و دين و نزلنا عليكم الكتاب تبيان لكل شيء دوست داشتم که اولا این رو از قرآن ما اصبار می جمعیم من تدهیر رو از حدیث می گیرن. اگر این کار رو قدیل رو به داری انجام بدن من باشه روی حدیث می آم می آم این کار انجام دارم می دارم من خیلی من بیشتر منون من من من من می شودم که در حال ما تحریم موسیقی رو از قرآن هم نداریم در قرآن موسیقی حرم شده وقت این که ما در قرآن لزمی صحیحی هم داشته باشیم نداریم. در قرآن احکام مجملاتی هست مثل الصلاه. آیا در قرآن آمده که ما باید رکوع انجام بدیم، سجود انجام بدیم، در قرآن نداریم. ما انجام ندیم چون در قرآن, قرآن نمی‌مده خیر. لازمش نیست که باید در قرآن بیاد که ما انجامش بدیم. این یک مطلب، مطلب دوم. خداوند اشاره کلی داره در قرآن به بحث به بحث حرمت اون چیزهایی که شاید منجره به فسار یا به به خیلی چیزها بشه قل اِنَّمَ حَرَّمَ من الْكَوَاحِ شُنَا ظهرَ منها تا آخر این آیاتی که هست آیات کلی هست ولی گفتم لازم نیست که ما یک حکمی باید همون مطلب در دا قرآن داشته باشیم اصلا اصلا شما که این فهمه شما درسته بلی مطلب که اینجا مطلب, مطلب اینه که قرآن مسخنه و قدر قرآن وأنتوا في إمام الشاخصين في أبواب المسميات، إمامات السنة الرجع في معناها الانتصار، فهي تفصيل لمجمله وبيان مشتريه وبسط مختصره وذلك لأنها بيان لله، وهو الذي ذل عليه قوله تعالى بأنزل عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وإذا مقرار تنزل في السلة الأمرا إلا فالقرآن تنزل على معناه دلالة إسرائيلية أو دلالة تخصيبية يعني الشيء عارب أسرائيل ليس ملدي كالقرآن فالقرم معناه يلدن نفس إسرائيله يلدن تخصيبه ولذا مباريات، فبينما كل ما قل على أن القرآن وقد كلية الشريعة وينبع لها، فهو دليل على طالب أن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، لحتى عش بأن خلق القرآن يعني شيء يعني هي أنبىء الله عليه السلام القرآن مباجنة، فإذا أنشدك هي صلى الله عليه السلام مباريات لا يبقى حديث القرآن. و شما نمیتونید یک مر فبود از برد در قرآن نیومده که روپود شده چند روپود داره چند تفاکر داره شدوشید تشرفت روپود نشیده داره كلية علماء، كلية حاصلو مدراء، كلية نمذجة ناقلة، كلية مدراء، كلية مدراء. جزئيات شوننا براءة تأليف كبر، مترادفات شوننا براءة تأليف كبر. كلية تأليف مستقلة قل إنما حبنا ربي الخواحش ما ظهر منها وما بقى. والاسمه والبغي بغير الحق فدبان گفت في الاسمه والانما حرم ربي المياه والاسمه ايش هي گناحه گناه چیه انجام ندادن تاع و انجام دادن حرام درسته؟ ما يا ان كه رسول الله اصلا دستور ميده يك چي را انجام بدي ميشه واجب و يا دستور ميده انجام ندي ميشه حرام باص که یک شخص میاد نزد یکی از صحابه میگه که از کجا آمده در قرآن که فلان چیز حرامه میگه سلیح الذین یخالفون عن امره بر همان واسه اونهایی که از امر رسول را نمی میکنند و امر رسوله حاجی خبر داده و الله به اون چیزی که در احادیث هم حرام است و اینکه این چیز حرامه و گناهه و اصل گناه هم در قرآن بهش اشاره شده قرنما حرم ربی ثم یذ والابن گناه مطرح بطور مفصل اومده کلی در قرآن هر چیزی که رسول من بکنه دستور بده انجام ندیم حرامه است اصل اینه در نزد لا اصول اصل در نمیگینه که حرامه و این چیزی هست که اصل کلی هست ما میتونیم بهش استناد بکنیم اون چیزی که خوب پاکه هیچ مشکلی واسش نداره ولی اون چیزی که ناپاکه اون چیزی که مشکل داره و شر مشکلش رو بیان کرده حرامه این تبیین است دلیل هست دلیل, هست دلیل کلی تبین از قرآن و تبیین جزئی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلیم. الان ده اینکه شما امتداری موسیقی اجمه این مصادره مکتوب میشه لقدر شما الان مصطفى حفر را بر حسنی موسیقی صادق کنید شما ابتدا باید از قرآن اجمی بودن موسیقی را بکنید بعد دیاری از سنت براش خبین دیارید که بعد حالا و مزمار و دفت و دربتا و کوبه و نمیدونم فند و بربتا و اینا حرام این این این موضوعات را پرداختیم. چون اونها که برای یکی از آیات خیلی که آورده بشه برای تحریم مستقیم، همون آیه است که در در جلسه تلرات کرده. بنابراین ما یشتی الله رضیلله علیهم استادنا هزوار. ای شما چون ب هتنane کودمیت لمنخ زورزه جمال بارجlide انه غناه اومده تم ن pickyون تو یہ بعد حدیث نينه ن bastards مowania دار قوبر Toko اب برطافه من هزوجن که غنات آلاد زوجن جسد غنات اما به حدیث میکنه تدیده ر황بات اللعفهن اشتبه ما فدیه عرب این لعنا حدیث موجبة لأنه قدرنا عن سبيل الله بشهر فتعلي الهدعات بجهد الكثير قرآن رفت لي الله عن سبيل الله فقالها عمد فسيلا دي مسيح لأنه شبنة بلد تعلق مدية بشيء بملابثات شنان خدش فلأنها شبنة عين تعلق مدية حبنة كانت على المدية مثلا این حب به که الله سنگیده حب به که الله سنگیده شما فرمان چه استفاده کنید؟ قرآن برای مشکیل باعث گمرانی میشه یو دلویی کدیره باید ببین کدیره هم همشان رشت هم یه رشت هم خبه فرس کن وانی برای مومنین چی میشه باعث نهرایات میشه بلا همه قران که باعث نهرایاتات برای مشکیل باعث چی میشه باعث ببینش میشه مسئله اینه که اون حتحالی که محکمترین مستدل به اطلاع محظمین موسیقی هست که من این رو دومان روزه بر شکل میگم دومان روزه بر کسانی که تو شکلی میگم عووزه ستان نکرم من نمی کنم الان من مصادر محظمت نمی کنم ببین میگم الگه ها دون که یه چی از آیاتی که ترمداران تحریف موسیقی به طور مطلب برای تمرین آیا؟ کی آیا؟ اصلا تحریم موسیقی. موسیقی اگر لیاقت الله صلی الله علیه شما با هر چیزی که لیاقت الله الله چی میشه؟ حرام. الله موسیقی. موسیقی که تحریم از سناسه شده بردار یک معشنه که من یه سناسه رو در بردار رحاق حساب حسابه میره یه چیز دارن صداق تقدیر که مردم را با این از خدا از قرارت خورم ریاد خورمان ببرن خب در این موسیقی هیچه از شخص داره که حرامه موسیقی که بارده حسابیر الله بشه نه موسیقی نه حتی اگر آدم نماز بیاد کنه به که این نمازش کارهای دیگرش که از قرار بده نه به قادمان دیگر این نماز رو نه میشه تو نماز بکنی برای این خرق کلالی رو ندید های این روان بچون نماز رو مسیله قرار برای قرار از طرف یعنی یعنی ابرد در خشیه به شد ندید خودش خود شاید به هم فاظت نگیرد از این شما چجوری احساس اتفاده بطورید مستنیم نجونیم ولی از اما قرآن ایچو تاریخ از بلد ناظره به اگر این باشه خیلی چیزها میشه بیر ایسی بولن شو هموند شدی تار در گفتن اصل کلی ما اصل کلی و بردیم آیا یکی که دوتا در قرآن نیست در امر به مؤمنان اینکه که اطاعت از الله و رسولش بکنن آیا اینه که وقتی که رسول الله عمری میکنه که در قرآن نیست ما نواد انجام بدیم یعنی باید ما براساس داده شدن عده شتهری برای توجه که وقت دنیا 20 چیزی که در اگر از چه معلو یا اهل دین آمده فقده بنایالله و رسول یا اهل دین آمده تقریباً کل طولانی یوسف لات معامله خواهم یوت کار میکند من یوت عده و رسول و فقط فرد فوزن عظیم. آیات زیادی که تو تونیس یا اهل دین آمده عظیم آمها و رسول رضاها داره ام می کنه دستور میده به این که این چیزها انجام ندیم حرامه الان ما بگیم چون در قرآن نیمده پس ما انجامش نمیدیم و پس ما قبولش نداریم این خلاف دستورات قدواندی هست و این که من آیه از قرآن نیمده استدلال از قرآن نکردم چون که عذبه از قرآن که اومده عذبه های عام هست های از اصول کلی مثلا بر پس همین گناهی گفتم هر چیزی که دستور بده انجام ندیم گناه هر چیزی که بگه انجام ندیم گناه الا اینکه که باشه از اون کجا آمده در قرآن که بول نجسه و که اینکه مثلا بدنش بر بیخته باشه نمازش درست نیست الا چون در قرآن نیومده، پس این دستور لازم میشه میشه در قرآن اومده این چیزی که در قرآن میاد او لمس ما نه من بفهمم چی دیگه اومده که بدنه؟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 وجود دارم بوده بدن نجاستی از خوشا دلیل از فرآن هست که درست نیست. وقتی خدا من می‌کنم که شما با این قاید که ما یکمان یرید و یکی عالی کنم وزیدی من حالت وید خدایتون یرید و یکی مدامتون و یکی مدامتون و وقتی بست می‌کنه میگه با فوزم خدا من که شما پاک باشید این کلیت از سلاس عدیده میشه نه بست با این وزوریش وزوریش ما تک نه روی بحث مرکات از کجا to normal روی Wit default what a wheels your Марs There is? you h Samantha what a a AUD MEDV what a wheels your Shver rid me? what a Thomasμα Mesha Akslasem 2 easily tells you tat that you're a Shver Rock That you've said into aenbar J деньги that you buy a Donch lungs very از این از از اینجا من ارده دار شاید بشار دیموید تیانبر صلی اللہ علیه شارع مستقید یا شارع مستقید اما تیانبر صلی اللہ علیه و شارع یا لکھ تیانبر مدلینا با اگر هم شارع فالفاقه في الأمان ترسي كي أترسي خدا من شعر خدا بمان بلاغي في هذا القرآن فما على رسول إلا بلاغ إذا لم ترسي فإذا لم ترسي مخالف غادثات فالشارع خدا بند ورسول الله مبلغ وما ينتبع من الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأن دلل إليك الذكر ما نزل إليهم در قرآن وما دي قناه ورسول الله أنمع القناهار یک از گناه ها هم, هم شنیده نمیستیم و آهنگه خب غایران در اینجا ماس چون این،, این جمعه هم در سرم جمعه این جمعه, این جمعه که ما که شاقیزی در مواقع باشه میگه که هر کسیتی در اشترانه باید کلیه داشته باشه بعد این ایزازهایی که بهش میشه مطرح میده بعد خودش به جواب میده در میگه اگر اینجوریه پس یعنی تاعد قیامبت به چه درزی کنه؟ اینجا عزیزی و سور رو مگی خالفه فضیح در رضی رضی خالفه نه معنی داره میگه ببینید، برزید خلابن یک محملهی رو در قرآن به صورت مدبه در قیامبت در الله علیه و سلم مبینه حسنا إن بيان إن ن احتمال جد جد بيانة ديانة جد احتمال الشهر احتمال الدجاني هم دار لا احتمال الدجاني هم دار بعد ذلك في عامة صلى الله عليه وسلم الميدة قول آجاره حسنين من كل هذا الشهر يعني حامل احتمالات الميدان الكناب وقتی که احتمال رو تمام یمنیش اجرا نکردید شما نه دارید شما وقتی که به جای عمل میکنید به ب... جای عمل میکنید در واقع شما به مراد خداوند متعال مطابن عمل دارید و این به سنت عمل میکنید به بیان رسول الله صلی الله و آله سلام عمل دارید یعنی شما در خاطر خدا عمل غذایی اما یعنی اینکه شما در به از هر دو اطاعت تردهید اما اطاعت خیانده در راه اطاعت خدا شده ده اطاعت مستقل نیست چون اگر اطاعت زنبایی اطاعت مستقل شما نوز ده اطاعت بود رو شاعر این مونه که شاعر به این حقاعت هیانبر در راستای خواهد خدا بلا تشکی، بلا تشکی، مثل که مثلا خاطشای دستونی در بدیه که خلاکار را انجام بید وزیر خودش میره و به سربازا دیگه کار انجام بید سربازان بسی فرمان وزیر را انجام بگن، به یک اعتفال فرمان وزیر را اجار کردن و به اعتبار دیگه فرمان و پادشان اجار کردن و در آنها فرمان هفته را اجار برگیر از چیش خود و از چیش بادشان برگسی این بلیلو آیم احسر و تعالی این برگسی و جلوه سلامی صاحبا خورده حسن رسول الله دارد که خدا بان قرآنش رو دارد قرار داده و تانا قلو خود قرآن قرآن متحقه قرآنی که قرآن تامه که به این دفعه دین به حرکت روامی داره به ما میگه این خورمان تشبه سبحان در واقع زمانه به تحقیل خورمان شد زمان میگه خورمان شد و تحقیل میشه تو خورمانی بینید که کارده توی نوشته احمله ایسی که میاد برای ما تبعیم میبونه و تیانبه صلی اللہ علیه بیشتر از اون چیزی که قضا بهش گفته بیشتر از چیزی که خدا یا بیشتر از اون چیزی که, که نه تحت بیا شکار بکنه بیا بیده جواب شکر نبیتونیم بیشتر از مشروح باشه از مشروح باشه چیزی بگیم مشروح از من <تصفح> الحمدلله که قدر شیخ هم تو رمیه رسول الله شاره حدیث هم شهر قرآن گناه را داره که اشخاصی آهن را حلال می مشروب را حلال می کنن اشخاصی من و یک مطلعه هست که من باید بشت تذکر بده طلاب غلم من خصوان فقه همون که اهل فطح و اهل بصول فتحن. خودا نکرده نباید ما یک اصل یا پر... پر... یک اصل کلی را از قرآن استنباد بکنیم بعد با اون اصل کلی بیام بر تمامی احادیث قضاوت بکنیم با رأی خودمون با نظر خودمون این جوری نیست که هر کسی بیاد با نظر خودش بیاد استنباض بکنه قواد خود امام شاطبی تذکر می تا به کتابش میگه اون چکسی که کشش نداره اون شخصی که از علم اصول فقق آگاهی نداره حق نداره یک کتاب من رو بکنه تا اون چرا؟ چون یک سیری قواعی هست که شاید شخص اشتباه به و ما هم نباید یک با یک اصل کلی یک جدی که در شرم اومده دلاره که برخورمتش داره نباید با اون شکم کلی اون جد با میکنیم این نجمه روش نمیتونیم چون اجزا اون, اون که ما ایلرش، اسبابش، حکمت هاشو نمیدونیم نمیدون روش بکنیم این چیزی هست که باید گفته بشه و باید تذکر بینیم به طلاب کتاب موافقات می‌کنی، درست بکنید و فکر نکنی چون تنانچی با عقل شما جور نمیاد این حکم جزئی با عقل ما جور نمیاد با اون چیزی که مراد خود در قرآن پیدا نکنیم تبک اون حدیث خدایی نکرده نیم با اقل و گمال زن خودمون بیام خطابت بر حدیث پیامبر بکنیم حدیث پیامبر صحبات خودت خودش داره همونطور که خداوند میگه مبین رسول الله علیه و که اون چیزی که میگه از خودش نیست اون چیزی که هست برگ خداونده و ما هم بدیتمون اطاعت از رسول الله علیه و سلام مبین فیرهی بکنیم هر چیلوچه از جل. چی ببینیم اجتهادات رسول الله چی ببینیم وحی منظر از طرف خداوند در هر صورت نص قرآن اینو میگه که ما باید به هر حالتی در هر حالتی دلیل سازش در هر یک چیز باید از رسول الله سلام پیرو کنیم این در ابتدای در روند در انتهای بحث جناب دکتر من میگم ببینید به در زمان طبعه بعدی ما اینکه چون الان بخواست مراقشه حدیث رو برای بد بذارم برای کار رو چون قبل از اینکه ما برم به سرقه باییم کسی روی فر افلیم و همه را کشت اوند واقعی میشه به موسیقی موسیقی از از نباردات میسته حال انجام بده سوالی را طرحش از نظر منطقی ثابت می‌دونید که عبادته حالا اینکه این که این شما ثابتونه که عبادته بیان به ثبات اینکه عادتش خاص نداره نه نهی نه یک طریق از طریق نه اینجوری نهایتاً هر کشاله هر جمله شما قادر ماره نیست اینکه اینا که مثلا یعنی شما شما جلوی شرطتون دو دنیا شما در معرض دوزدی باشید به دوزدی نکنید حالا هر شما برز مدرد تباب دارید یا در معرض زنا باشید زنا در مدرد تباب دارید بگرد شخصید مخدمات زنا نه، افکار زنا برای ممادی افتران نمیش کنید که تمام مدرد دارید یعنی ترک باید شما در معرض زنا در ترک داشت این مدرد. بسیلی بعدی این که ما به احراظ برای احراظ شدید یعنی در مسائل عبادات یعنی حق و برد و عبادات هم معقوله المعناه است هر از ما میگیم پاس عبادات معقولت المعناه نیست نجیب رایل الله تعالی بلیمان عادات عادات حسما معقولت یعنی ما معلاج تحقیلش رو میفهمیم خدا و این چیزی تحرسی برخدا همینی چون فقه های ما، بزرگان ما، عمره ما در تون تاریخ نشستن و تعریل احکام کردن تو کتاب های زیاری در تعریل احکام هم نمی برای همه احکام علتش ها را، علتش ها کردن مشخص کردن تمام اعضای از حکیم علمی از تمام جوبلی تا اخر سال انجام که این لذت تحريم موسیقی چیه؟ تبدیل مطمئن که تمام اعضای میکرو تمام اعضای جوبل شریف است. میگه از در اثبات حنجره حیوانات است و نه بر اثبات حنجره نه یعنی مثلا نه در واقع تقریح اون بودگیری از حنسره حیوانات در حالت نه نه نه نه با دیگه نمیگن نه نه میگه که برنامت میگه شید هیچ چی چی دیگه که عرض صناعات رو به صحبتشون میرسونه مگر اینکه مثالی در حیثت هست یعنی ارزان همیشه در سرقه از یک چیزهایی در خداوند خدا برداری میکنه همونم این میاد از فراندان برداری میکنه در این از خدایی برداری میکنه خب میگه پس همه لأسواد يستحيل أن يحرم لكونها ضيبة وموضونا فلا رغباً يستحيل الزوت العندليم بصادر طيور من ايك مستحيلة في الكتائج من حرام حرامة فالشي بين الكتائج عن دليم كي بوي بوي باطلة صغير العيوانات مين فالشي بين الثلاغ فالشي بين الثلاغ فالشي فلا بين الزنادن به حیوان به فرق حیوان جماعت و حیوانی این چیه که صدای که از گوشی در نیاد حسنو خیلی هم خشم باشه حلاله به همون صدا اگر از تاری تینی در برد حال موشه درستی خب رسار امان غدالی به من کامل بکنم به تفتیف هست شماره چیش امان غدالی در تحیات اروز جلد دوترار سال 22 دوییت کسی نگفت است به صدای تند پرندگان نمیتا شما گفتید حرام هست و به صدای تندگان صدای دیگر شیط که توسط انسان ها از اجسام دیگر خارج می شدن یاد برکه می مشکلی نیست و این صداها از وقت موسیقی و تار که با آن ساد زده می شود. و از تنباله کلامی که شیخ بودن و انواع نی ساد نی که دین آنها حرام استثنام میشه شود ادامه کلامی که دکتر کندن این به نفت هست که در وسط شده که بود که دکتر کندن مهر میشه هست و این از دارا علمات و کار که با آن سال زده می شود و انواع ای که دین آنها و حرام و حرام زد استثنام شد بلکه میبین شریکن انواع کار که بتونه وز بز متناسی بزنه میشه هست و زد بخش هست رو در حرام هست بدون هرچه بزنید که بادم میگه حرامه، این صدایی که ها در شتابان آخش است، به دردگیرت هم نمی‌کرده، دننه هم باشه. بازار میگه این سلام حرامه، این هر که من قضاوت دیگر، این چیزی که در طیا اول می‌گی، چند دوم سه چهار میگه. و آن چیزی که من گفتم در صدایی بعثم، و هم این که آزادی اتباع دست و ترکیه یک چیز عبادته هیچ بخش بر بقیه یه چیز بابا همچنین داشت. چون حرامه انداز کاری و فرصتش داشتی حرامه انسانی که فقط اجازه باشه بدون انجام از هر کاری حرام باشه و اگه در مباح بود که کاری در درش ثوابی ندید حالا مثلا مطالون چارکی که آقای جوهری دارن درستیه چیزی که من دارم نمایش ادالیه یویی هم میاد. میگه میگه بنا یوستان نه دهانیه ملاط. این یه نامه ترس داری که داره. یه که گفت. از کسانی میشه بدم در ملاهی ملاهی این آرائه. بر مزامیر میگه. آرائه این آثار و مزامیر میگه این مغزالی بلا يستثنى من هذه الملايين والأوزار والمزامير التي برثت شرعا بالمن منها لا للمزتها يعني ما بنا رجال المتخدم كتحريم ملايين و تحرين مضامير إذن تحرينش بخاطر ازادش نيه بخاطر شيء بخاطر غيره مثل كبير مقابلش بخاطر نمالش وحرامه لا لغاتي بل غيره ميجي لذة للذتها إذ لو كان اللذة لفيك عليها كل ما يتد فيه الإنسان بإمامة الحرامة من الباطلين جيسانة لذة للذة شونا ستشبه دليل جارس للذة بردان حرامة بطول مطلع حرام للذة بردان دليل مطلع بردان بجمان سهين يارس شد حرمالهاد و خدافن هستی که در حرام میکنه تفرش کنه برای رد بامت قلماً حرم اللهی التي احضرت لعباده و الضیبات لمرد کسی حرام کرده دینه هایی خدافن، دینه که برای زندگانش بیرونه برده، و و زینت چیه زینت هر چیزی آدم از اون لذت میبره مثلا زینت چش دیدن چیزهای زیبا که چه لذت برات داره گوش شنیدن چیزهای زیبا که لذت میبره زینت بینی و دیدن چیزهای خوشا و دلعک داره زینت لنفت های چیزهای نرمی که دادش لذب میبره وقت به دراها بود میگید چی کسی که هی حرام کرد لذبت تا یعنی واقعه لذت نبرست یعنی چون دلیلی چون زلیلی دار لذبت بودم این که لذت لذب حرامه دار لذت داشته این حریبت را سوما دیگید لذب لذب باشه چون خدا لذت کردن در خانه به و حرام که ببین بنا لذت داره نگاه هم لذت داره این حرام است خور حلال است حرام لذته یعنی این است خانه به شر و خانه خالص خالص شر یعنی چه اگر لذت می شما در خانه شر انجام بدید در خانه شر انجام بدید در مسجدی دارند که خوانند و دارند مسجد نازل میگن که خراب وسایل لاتا دیگر نداره. اصلا اصولا وقتی لاتا لاتا دیگر چقدر خرابه خداوند هر دن خداوند میگه نه خراب نکن الله هست. زینه چیزی برای خدا نیست. چیزی برای خدا نیست ما برای چه برای باشه برای باشه برای بینی باشه هر فَخَنُوثَةُ الْذَّكَرِ الَّذِي لَدَى اجْرَامِ النَّاسِ لَقِيَتْ عَلَيْهَا كُلُّ مَا يَنْتَسِبُ إِلَى الشَّرِّ هَذِهِ الْعَادَةُ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ بَلْ لَكِنْ يُحَرَّمُ الْخَمْرُ فَسَدَّتْ النَّاسِ بِهَا أَيْ إِبَالَةُ عَنْهَا حَتَّى نَسَاهَ الْأَمْرُ فِي ناخوب شعار و پحلش شد قضی دوتا و مزامی رفت این شده برم امام قراری قراری ملاهی و مزامیر به اوتار رو در حرام شده ندفا این بوده که این لحظت داره فرک به خاطر هیچه این اوثار و ملاهی در زمان پیامبر صلی اللہ علیه و تعالیم بخبر این شعاره آن شور بوده، شعاره آن جد، لفاظی شور بوده، حمراه شور بوده، همهای بوده همیشه. بوده، لذا الله علیه و سلم اینو حرام کرد. مگر اما قبل یعنی تحريم على جميع الطاعات يعني في هذه المرحلة بيكوني عذابك في حرام بيكوني. بقاطر الشيء بقاطر هذا الزي. كما قلنا الخرقة بالعذابية، الخرقة بالعذابية في ذاتي حرامية، لأنها مقدمة للجناة، شو المقدمة للجناة الآن؟ النظر إلى الفخر في التصالح بالسوتين حرام سند القدامى، ده حرام. جلّا بس. ما احوال الله خدیرون این ما حرام الله و دهو حریم به یا حرامی هم به حرام إذ كي يجلون المغادري، من هو الذي أراد أن يدخل هذا الهرم؟ بيت بار كاملة، فهي من فهي محارمة أعلاه بتحريم الخمر لثلاث علام، إحداها هي حرام بالتعبير تحريم خمر، إن هذا تحريم غلاني بالتعبير تحريم شون؟ دا فيه الشراب فإن المثلة الحاصلة ذاتها إنها بكثمه بالهاب هي المثلة الحاصلة الموسيقين المداريب باحام حكيم بللتهاب العلة الحارمة قليل الخامل ايه ده؟ دو في قريب العهد بشرب الخامل میگه صحافه هنوز محفر به شمر خرب شمره شربه بودن تا به شراب رو تر زنده بودن توس کردون مدار مثل اونسه به شرب با شرب زیگه میشود رحیه صدبون فکره اگر این موسیقی میزنگن اونم یکی میومد اونم دیگه دیگه که عربیزی ها را جمعیان برای مثلا گرمشه با شراب دیاری. ب... ب... بس ذيك المطلب من دراسة من دراسة الشرط إذا أتى فهو بطلب الامام فما هنالك بيكونون جل الاجتماع عليها لما أن صار من عارف على البذعة فيومنا في من تشبهه ليان لأن ما تشبهه يقوم فهو منهم بل هذا العلم نقول بهك السنة مهما صار الشارع لأهل البذعة خوفا من التشبهه ليان میگه جناب امام رضا علیه السلام میگه اینجا و هر چون هر بندی با فتو بده درست اینکه علت باید مشخص باشه کی گفته باید در شهر علت مشخص باشه علت یک بحث منزری هست ایلت یک وقت موزده که هست که لازم نیست ما به نیشار اصباب حکمت همو بدونیم بلی ایلت مشخص نیست مثلا به فرزن در سال من یک مثالی بهتون میدنم فمن که الامین کم مریدون او على سفرین فعزتون من ایام اوقع کسی که در سفر یا مریض باشه ماه رمزون روزهای بردادون هر وقت بختفر سفر مرد هر وقت خوب شد روز میگیرد سفره مسافرته علتش چیه؟ گفتن یا حکمتش چیه؟ گفتن حکمتش اینه که سخت بر این اینکه روزه بگیره در به شهر آمده تفکیدان به خار برده تا اینکه چی؟ سخت برش نگذاره در نتیقه روزه رو بخوره افتسنه قادم شده خب این اطبابه این حکمت هاست که ما برداشت میکنیم مشرطت و سختی ما برداشت میکنیم ولی این آیا مدار حکم روی علت مثلا بهتر از کارگر ایما داریم زحمت میکشه کار کارش کنه مشرقت آیا خیانسه بر اون شخصی که خیانسه بر اون شخصی که مسافر هست چون اونجا گفتیم مشرقت هست آیا خیانسه بر اون درسته که ما بیدیم اون کارگرم خمط روزش بخاره به اجماع عممت خیلی چرا؟ چون علت در سفر مشخص نیست اون اتبار و اون حکمت چون علت بس به نیست. هست من کهلم منكم علا سفر فمن کهلم اینکم او علا سفر در مصافرست بود بر مصافر با بس منذبک هست و همیشه احکام همون درکمیلید در بحث علت ها همیشه احکام احکامی در شر صادر می احکام هست بر اساس علت های نه بر اساس حکمت ها و اتباب که ما برداشت می کنیم بحث لذت کتی نکن در بحث لذت نازمشی این بحث یک بحث که ما بین عللت ها در اصول درد بین علت و اسباب و شکمت ها حرف بذاریم شما اسباب یک چیز را درست بکنیم ولی که علت را نمیتونیم درست بکنیم همیشه ما نمیتونیم درست بکنیم باید علت هم درست بکنیم توی در که بوده اون خیاش این یک مطلب. مطلب بعدی که بشن اشاره کردن بحث گفتار امام غزالی که گفتن این گ چون با هم مقارنه شدن در نتیجه حرام شدن چون مقایسه با هم شدن وقتی در حدیث اون حدیث اومده خمر و مشروع و عبریشم و زنان را می میکنن آیا چون اینها با هم در یک جا اومده در یک حدیث آیا سبب نرمته یا اینکه هر کدوم از اینها حکم و مستحق مستقل خودش داره یعنی مشروب به خودش حرامه عبریشم به خودش حرامه پوشدن باشرو کردن زنا کردن به ذات خود حرامه یا اینکه اگر با هم باشند حرام هیچ کده قم تا که اگر اینو با هم جنب بشن حرام منفصل از هم حرام بشتن. ما هم ترام که چه بی در این اصول فقه در نصوسی که به این دو در آن آمده چیزهای مباح و حرام با هم ذکر نمیشون اگر ممکنه که در اینجا آهنگ اومده باشه آهنگ مباح باشه بقیه حرام باشه و با این تابع اینه آهن تابع دیگر حرام ها باشه نباید باید برای انجام دادن کار با تحديد و توثيق بشه. فرمان مثلا درستی است که گفته شود اگر زنا کردی و آب خوردی عذاب می‌بینی. اگر زنا کردی و آب خوردی عذاب می‌بینی. آیا آب چراتی را زنا کردن بعد این میاد که الذاکر بشيرين اي الذين لا يدعون مع الله اله الاه اخر ولا يقولون انما الذي حول ان الله الا بالحق ولا يظلمون. سريين آيه چیزی که من دلیل از این که هر کدوم از این به تنهایی بده هستند که انجام دهنده آن متحق به هر چند این تو با هم جمع نشده ان. این چیزی که اولا ها در کتاب کتاب های بسیل فیلت اشاره می در رسول فیلت کتاب تفسیره یا بسیل شیراتی احکام بسیل امان و مثل و دیگر که در این کتاب رو می که پس واضحه که هر کدوم از و اگر حلال بود یکی از اینا هیچ وقت با هم در یک جا جمع نکشدن پس هر کدوم از این نه. هر خودم از این مسائل به خودش حرامه مشروب به زاد خودش حرامه نوشیده نمیدونم فرقشی زنا کردم خودش حرام هر کدوم مفصل خودش این در قصد دو تا شماراتی که مطرف روان <تصفح> شروع شد با استرداد بکنسوز در و بعدم که تمام شد در حتیل داریم بخصوه و بگیریم بریم تره از احادیست قومت دید این فرصده مطمئن تورم دیگه استردادان شده در حصه خود احادیت بگیرم شد مثلا آن این که ما داشتیم که از امام قدالیز کردن در حصه خود خود همین حدیثه که این احادیت یستحلون الحر و والمع... الحریر و المعادث و الخام این مقارنه با هم شدن به این در این عقبت و این اساس و این مسائل که در امنا قد حتیالا جاب موضوعی بشه ما حالیث و حالیث و تارلازم خیلی هم بهتره حاجی کلام پاک، حالا وقتی بشینیم، بذاریم ببینیم الا کی بودین میگه کل کلام فقرا من غزالی، به نظر میاد خلاص بشه سرت، اول احادیث بشه پرداخته، بشه چی مشکلی داره حدیث بخاری؟ مشکل تصدیق از لحاظ اسناد، از لحاظ متن، امامی که ما قبول داریم سینه رسول الله مدام، قبول داریم که هر رسولا باید چه تدین بشه، پس ما به خود احادیث، برگردیم بحث اجماع، برگردیم بحث قبول تطابق، حاجه ما جون بچه‌ها فرصت باشه، صبر فقط باکون چی تباره نشده؟ دویتر میگه از زیوری. دنومو هم مفتادی دادن نداشته. اگر این چیزها اصل موضوعیم که کوتوم اسلام نمی‌ماند که این چیزها و قال لهم ان انزلوا في سفح هذا التل فقاموا يسيروا ففيهم شيخ فيايه راجع عادي ذو فخ نفسه وناخذ للناس پدرش رو آبی تا اخترفتیده نبوده بود لازم نه برای که تو براتش اردن من تو براتم دو دقیقه کشیدیشانی جناب که دهه دهه روز ساده استو میکنم من دارم ملاقات میکنم اما و یا مالش تلاش کشور اکثریش من از خواهش من از مسلمانانی خواهش از وقتی که دارم من خدا ما خوب است و دارم خوشش من نگه داریم یک مشجعی باشه خیلی از اون حقیقه دیگر بیشتر در بدون که من شما شیخ صحبت کردی و در در جواب من و من دارم کردن کل من و فکرم نتونم حالا اگر یادن شما اینه که در وقت رود ادالت های نفت بشه درست میگرد وقتی ترسال ترسال ترسال میکنه ترسالت جوابی ما درست بشه شد آنه مشکل نیست ما ده ده ده. حاضر اینکه بشه نمیشه اترازات اگر اگر بشه که اترازات ادام بر حدیث من بخاری هست که از راز اصناد منتش بردست یعنی علماء اختلاف دارن و کتاب ها شده اساطیب نوشتن علمای بزرگی که دربستانه ها هستن ما میشنبیم بهتره که ما به این حدیث داتا دادیم چی گفتن آنما درباره این هم با کدوم طرفه خب ستر دیدیم حدیث ما اگر در حصورت طرفه در در حصورت حسورت کردن ولو چه در وقتش نه با که با کنم اوتین مسائل بود وسس ان شاء الله تا بی این معنی که این بحث خارج از ما حالا چون الهی لازمه من بگید حکمت حکمت حکمت خوب متشخص بشه یعنی اینکه خدا وقتی الله تعالی با او تدبر و فرمان امر میکنه یکی از مباحثی از مقصدیات تدبر اینه انسان در ا علت ها فرمان خداوند علت های ما خداوند چیز وعده نداره ما این که علت نداره نشود فقط نداره علت داره حالا هر که علت نداره علت نداره ما متا هست میگن احکام شرعی فقط در بحث آلات أشياء غير معفولة المعنانية يعني بايد معفولة المعنى باشد اگر معفولة المعنى باشد نخوضه بالله خدا راب لغير حكومة شخص وراءت لكام بجرد بايد معفولة المعنى باشد خلا في اي تنقل قد تفنه لا حكمتش مطلع شخص لا لا نمبرمه الهدت تحليم شخص حكمت تحليم شخص به ها زمانی که علمت هست حتمتاً محلوم نشه خب در آن حال نشید به ندیجه درسید برمو بست حاطی کنید کنید حتما بست میکنید بری این حتی دریب و حتمت دریب آن شخص کشید حتمتش کشید حتمتش کشید میکاز اینکه اجازه میگید چون رو نایجا فرید فرمونت بیانات روشتر باشد باشد باشد باشد در یک درسی که این حتی درسی که علمت روژانا که جواب خوب یک دقیقه نمیشه جلوش بیاد بحث سویدیات بیا ما داریم همونطوری که روی تابلو می‌بینید ارکان تکالیف برای یک اصل دو فر سه توخ چهار علت یا علت تحریر مثلا بر فرد عشری داریم اهل بیسی یا بیر داریم فرمان فر. فر. فر. فر. شاه شغل اصلیه شغل شرع اصلیه که هم؟ خم حالا سر الاهله الدراس التي حرم دونك مشروع مسکرات هم كله مسترا حرام بعدال در بی بی بی هرچی باشه مست بکنه حرام شده این بعض اصولی هست و هر کدوم از این ارکان برای خودش شروعیتی داره مثلا مثلا بنده دومشا میکنید معلله حکم اسمع كل بشر بلیثو رکبتها و تشقیق دین که معلله حکم ش بر آن چی بوده یعنی باید ما بتونید درک بکنیم. مثلا به خاطر مشروع چرا حرام شده ناکننده بدونه باشه که سبب از درفتن شعور و درک انسان در آن حالت است و موجب تواهی و ظلم و فساد و دیگر چیزها میشه حالا یک مسئله داریم در کنارش اگر ما نتونیم درست بکنیم معقوله معنا نباشه باشه نه مستقیما با در رکوع انجام بدیم چه برادر سجود انجام بدیم معقوله معنا نه باشه نه نه ما گفتیم معقوله است نه ترید از حرمت وقتی که حرام شد در ضمنه عادات بخشی که نفس شد و بغایتر همین من گفتم شما بس بپردازیم به حدیث سهی بخاری مشکل برش وارد بکنیم تا این بپردازیم به بقیه مسائل مؤثریم در فرمتش نمیتونیم بگذاریم از قضی این افلسوا به در سر بریم به بخش آدادیم مسئلهی که بخش قوعد فقیه هست مؤثریم در شم بر فرمتش و لازم هم نیستر اون چیزی به شرح حرام میکنه معنا معقولت لازم نیست. و این محضره اتفاق برش در نخص ارنمایی اصول و در اصول که میشه مثلا هم بفهمون بحث علت داریم یا علت بعد دوم علت بر بحث باشه یعنی به اختلاف اشخاص و حالات و مکان متفاوت نباشه طوال سفر در شدن افتاری در فرمزان که خود سفر حقیقتی منذبت و معین دارد اختلاف دارد دارد ما دارد ملده ملده دارد و اختلاف عشق و حالت و مکان متفاوت نیست. اما مشهد و تختی حقیقتی متفاوت دارد. و تختی سفر در شهربند هم همانند زن زنی ولی که آمده به مشهد در ابتدای خیر. و تختی استفر با هم همچون ماشینی در نتیجه این ادلت مزده. اما ما می دانیم در ارقام، بودن تحلیل احکام به اوصاف ظاهر و مزدبات شامل احتمال حکمت که ازش مشکل نیست ما دارم. باید یک که منظورت بشه. اگر نه منظورتی می آوری؟ ای لب داد بکنی مدام بگو کلا مسکن حرام ممیتونی بلیکند در سفر من نمی دونم یا بری که یه چیز دیگر بر سفر نمیتونی چی معلومه که معنی فریمان چرا شر گوشتی مسافر باید حکمش ممی دونی سفرش ممی دونی سختی هم بلیکندش فریمان چه حس نشده تنهش من نمی بله بله یک شما افراد صورت دارند شما من روی خیلی خود به این حدیث قرمیدنیم کتاب حدیثی که ما داریم کتاب در حدیثی که ما داریم مدرده چیز ملاغه هم مادره من خیلی زحمت بشینم خیلی یک دونه حدیث از تو ملاغه هم ماله در مورد حالاته مسطحه پیدا نیترم توی صحیح مسلم واضح خیلی زحمت بشینم یک دونه در مورد تحریم المسلوطی توسنی المسلوط بنا نکرم توی بخاری امام بخاری لحمت الله یعنید ترهاد یک حدیث هست با اون حدیث امام بخاری بسورت عالی عبر ده بحث محاسم شما در تبتوک بودید به افغاد بندی بخاری امام بخاری چطورت امام بخاری هم محدث هم قبلی هم دکتره هم دارستاست در حالی که امام مسلم افراد بندی کتابش توسط امام نبنی اکرام شده است امام بخاری به خاطر اون حریمهی ترخیه خیلی خیلی که ناشته اومده کتابش رو افراد بندی کرده و مخاری که به نظرش می اومده کرده ولی از این مربوط آورده و میرید که امام بخاری من داری یک تدید رو در چندین بار دکنید کنه که بکنید من احادیت مکرده حالا توی سحیل بخاری ما هیچ کتابی و هیچ بابی نداریم که امام بخاری گفته باشه این باب در مورد تحریم بناس یا تحریم ناظرده این حدیثی رو در چه برده؟ یشربون کامره یستمون آن این, برده. برده این را حدیث رو در زیر این برده و این ناظر به عربی آن برده جالید حدیث معلق در حدیث معلق این هسته شما این رو متفاوتش بیکوین بیکن اتوم تراف متفاوتش و جه اتوم تراف متفاوتش این جوری متفاوته این را با اون را مایع کنن این به قرار دادن بخاری نشده بخاری که از خاله حساب می‌گردد. به نصف کویر به نصف کویر مایع نکنن نه ولی ما می‌دانیم حدیث مانده. یعنی اگر چند چند من چیز که باید در کتوب حدیثی هم در خرم ما هیچ حدیثی در وارد تحریم موسیقی نداریم مبادن داریم مبادن بعد سید مطرر داریم سید بخایر که هر امام در بدایت خرم سیبون امام بخاری و امام مسلم در همون اواجیت خرم سیبون بدونه اومد بخاری اگر واقعا این مسئله مسئله تحریم مناظر هر دینی بود جوند قرقیات دینی بود یعنی می این جوند قرقیات نیست هر قرقیات که خارم به تحریمتان ممنونت می آرد این اکشیتانی که بازالایی تحریم شده و تحریم نشده ونون ونون ونون ونون ونون ونون ونون آن با از اقوال اهمی عربی یا انشاءالله بزارم اکینات صبر نسانه با دفعه بس خود ایمان بخاری این رو از سرم در دیر باید این باید نموزه یعنی چون محیله بخاری چیز بنابرای تحریدی معافت ندود این رو مثلات عربی دیگرده بچاره با عربی هم که به کم معلق دیگرده سوال این را شما رو حرام حضاغ و خوز برای بخاری بیار که بخاری به این دلیل رو بگیم، دلیل رو بگیم، دلیل و بگیم، دلیل رو بگم، اون کرده اینها بکیل مداخب برای بخاری لیمیشه چون بخاری خودش در ملابطه و شرائید نوستن احتحیحش دامتنه امید رو شاید شرائید معلق نکرده هذا ثاني ديجر لما النقاريه ماده الجرميديه ما نادي دوروت ثاني ديجر بشكل بشكل متصل بشرة جاده راسه اذا هذا البخاري متصل نمشي ليه ما دخل البخاري فيه جلنا لا حديث ابو عبد الله حديث مش بينما البخاري البخت دار وقتی مراقصد میگن که بله معلقات بخاری حالا اونایی که میگن چط روایت کرده یه دفعه جای اسلحه میگه علی روایت کرده این نمیگنید اگر فرونا میگه بخاری یعنی کونی معنا شلون میگنا توضیح که بگن تاریخات بخاری صرفا کتاب بخاری صحیح هست اما جان ثلاثه و ده معلقات اما ببینید حدیث معلق هستن اینکه اصلا با همین حدیث نه نه حدیث حدیث می خواید من درد نمی خوای غیر غیر مطرح داریم چند مسئله آیا احکام شری مختصر شده در مواد ممالک یا مسلم؟ این حرفی که آنقدر مختصر مسلم بوده ممالک. این اگر علیه دوید درباره تعریف ابن ماجد درباره تعریف ما داشت نفرز و ما ها درباره تعریف ما داشت نفرز این در اینیسیه. هر کسی آن چیزی که ابن بشر بهش عمل میکنه و شافیه بودش میگه ایم محمد تو جاهی رفتی که من نرفتم. هر دو احداث بغداد و شام شدیدی به من دوکی چون من نرفتم اونجاها جاها. من اعلام بکنم من نرفتم. بس. شاید خیلی از بهش می بینش بهش نرست. بیشتر نرثیه باشه اون حدیث این یک دومه اینی که بخاری چرا نمی مدت بکنه نه حدیثه اما بخاری هفده داره دیویس دخورده حدیث داره بریا هفده داره تا داره آیا از همه آحاد استنبات کرده خیر اما بخاری کل استنباتاتش دو, ها دو ها هزار تا شاید بیشتر دو هزار بازیه دو هزار پنشش هزار مطلب بهش اشاره نکرده از مسائل مسائل فقی یک حدیث را از دست خوب به باشه اما باهاری مکنفه که همه اونها را بیاره نخه یک از مطلب را بابش میذاره حدیث ازرک میکنه. این دو سه این که گفته شده این حدیث معلق چطور ما بیام بگیم حدیث معلقه حدیث معلق اصلا تعریفه چیه حدیث معلق در اصلاح مخزز از یک شخصی ندیده باشه افناد و بین و اون راوی حرف بکنه حدیث آبید بشه یعنی مثل من این سر، یک شب بالای سرم باشه اون سخش اون رو بردارم ارتباطی با سخش ندارم رابطه این ندارم این میشه معلق از طرف چی؟ از طرف بالا از طرف خود راوی این معلقه حالا شما اگر نگاه بکنید کنید همون که بیدید امام باقایی هم نعمار شیده شه و قبل اصال ۲۲۰ ملاقات باشه و با لفظ حذتنا و حذتنی بخاله هم روایت کرده و امام ارنه در فاعث حسیث امام هم به کتب مختفل علوم حدیث میگه این حدیث حدیث معارضه متحده و امام بخالی چون این روایت را از طریق عرض و مناوله شنیده این سیغه به کار برده هست یعنی گفته نکته حدث نا و حدث نی عرض منابعی نی شی. یعنی امام بخاری کتاب شام منعمار رضی الله کشی خیقش قال این دیگه قله. یه رأی دیگه. که... چارمیش اینکه امام بخاری مگه مدلت دلگر بگی این قله دلعت بر تدییت داشته باشه. این قال مثل عانه. حالا امام بخاری جز مدلتی که بگم از دیگه قبول نمی دانشجو قله دلعت بر این داره امت کتاب هستشونه خیلی شیکه شد. چجور میگی که من بزرگید قاله مهل خاله حال قال الفاظ اید قاله حال فاز آداز این فاز آداز حدتنا و احباری اما بحث تنجومی باونم بحث معلقات این حدیث معلق ما بلتا ازم قبول بکنیدم معلقه معلق دو نوعه یا معلق مجلومه یا معلق غیر یعنی اینکه امام بخاري ديگه قال مجزومه یعنی اون شكه محادثه ديگه علم ما ابن حجر علم ابن كثير علم ابن حجر علم ابن سلا علم نلوي همه ميگن وقتی كه مجزوم باشه بسيغه مجزوم دلالت بر این داره كه تيشه خود ما بخاري صحيح بودي ميگفت قال گفت گفت اگه تيشه خود نبود نميگفت قال ميگفت قيله اینجا دهني اينجا مثلا نخي اگه بيجي گفتار امام نيكسي تي باشه دلالت بر این داره که اون حدیث نزه من بخاری صحیحه ولی غیر مجبور باشه مثل کیلا بر رویه در لازم این داره که چی غیر مجبوره بنم میتونی بگیم که امام بخاری پیششون حدیث صحیح بوده. آره بلکه در قبول بکنیم بلکه در قبول بکنیم آیا میگه احتمال مشهوری؟ ما مکالمه ای که از بخاری و مسلم یا از نوته و ماله بگیریم. تا دیگه این عیم چرا جنگندن شده؟ چرا؟ استاد ابن ماجد نوشته است که کودم می‌بینی. آل ام هستم برکار کنی حادث. امام بخاری ازشام نعمت ما پنج تو ایمی دیازدنی بالغه حدتانه و حدتانی مثل خسته ام الله تا کان ابن حببر وایست دیگونه عالیه. یا خسته ام نصوبیان با محمد نیادی. همین میگر آمده مکلفه که باید عباد بخاری باشه و بعد بخاری کافیش بکنه خیر ما مکلف نیستی بلکه ماهینه تقاضایی که ما بخاری اگر حديث را متن نبکونه آمدهش موعظه در صححش یعنی آمده و حديث را پذیرفتیم. اینو علامت قبول که ادامه حديث. اگر افسانه شنیده اردستان حتی اگر مطلبش مورد قبوله، بلکه میگه که اتفاقا حادثه متأسف در طبیع بخاری است کی مفصل؟ کاربردی که از گین حرف داده مام نهادم دادن آبی که دیگه نهار بوده داد، اما اون نهار می دونی کیه؟ ابران اون نهار کدیکه سرانه فرمیدن و نمیشنو. سرانه کردن دیگه، اما و فرمیدن و نمیشنو. کدیار قیاس و عقل مطلقاً تقبل نداره. قبل با تر شدت سفر بشنون که در برو که, که آیا همه احادیث فقط باید در بختاری و مستقل و بزنی واقعی باشه؟ من دونم اگر این مسئله یک مسئله معلوم مدکلین و در ضروره در که باید باشه رو اینجا اگر مسئله ایست که اون اونقدر واضعه اونقدر و شاهمتش اونقدر واضعه که جزء قدیات شدیه است باید واضعه اینجای بله گریم، مثلاً امروز شنبه میگم خیلی برای ما گفتن، و بعد از که داری باید بروی، نباید بروی. یه من، مگری دو بال همی، چی بخاری شما که دو هزار کامون باز آموزش، یه مزجی بی دو هزار کامون یه چیزی، چکار نی ورده شنبه یه چکار نی ورده مزجی که اینکار در حال، حالا حدس صورت، این خدا بران امسان و حنادیر بی کنوانه می کنند اونها را ایمان باقر این حضر مهمه چه مثلا کفر کی گفته کفر یعنی این که انجام امجاد در حال کفر در خلابه در خلابه ایمان در خلابه در گناه آدم با گناه کپر حال یعنی گناه بزرگی مطاکب شده خبانا گناه شنگ بزرگی که در مرتفع جده یعنی گناه شنگ بزرگی که خوبالانگورا مرد شده ترده و خنانگی کرده خب این در مسئله این ترد بزرگی این مسئله یعنی جدن تردیات شنگی یا که دردانیات شنگی است تردیات مونکر است کافر مونکر است نه یه آیا در مورد اخبار مزید موسیقی اجماع است باید پر کردی که موسیقی را اطلاع <تصفيق> چرا نمیشه؟ نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟, نمیشه؟ بحث این که آیا حرکتی منکر اجماع خود علامه عبدالکریم و محمد ایزاکتال مبانی فر میگه که نعمی کنه از امام حرابی اینکه منکر اجماع کافره چونی که از زندل شر را رد کرده ولی که آن را از دقیقه میکنه که این به اطلاف عشقا سر میکنه لازمه یک شخصی که یک چیز را حلال میکنه یا منکر یک چیز هست این نیست که کافره چرا؟ چون خداوند در حدیث صحیح که در صحیح بخواهی صحیح مسلم بر اینکه شخص در صورتی که اشتباه بکنه و بیاید یک حکمی را صادر بکنه اون شخص مآخذه نیست و خداوند هم دعاهایی که مؤمنان می کنند و در آخر سوره بقره اومده استجاوه رب و تو این ان و او در لازم اشتباه شخص اشتباه بکنه حلال بدون که خدا حرام کرده مثلا مثلا مشروب اون چیزی که در بقره اومده در وقتی که ادیه از سحر مشرو کرد در کردن آیات قرآن برای امر مخاطب به یک نامه می نویسه که چرا مشرو کردید بعدش ما تعویل کردید تو متفکرش که چرا چون تعبیر داشته در صورت تعبیر همون که شما میگی مثلا فرض یک مفاهیمی هست برداشت هایی هست این حدیث معلقه تعبیلات اشتباهاته اگر این اشتباها برطرف بشه حدیث ثابت بشه مثلا بذار نه الان اگر به موسیقی حرامه کافرم چرا چون از ذوات ده حدیث حقیقه. یقین دارم که این حدیث صحیحه یقین دارم که گوشی دارم ثابته من اگر منکرش بشم ولی اگر شخصی با شک وتعذيب ومرحله الاشهدة فارس 1000 سنه بحث الحديث الحديث وشائعه الحديث كان اذا كانت ابني تصدق بيه يعني بشائعه شائعه الحديث روی این چنین حدیث معلقات هیچ حدیث در بخاری معلقات بناقل نباشه حدیث به درس تاریخ باشه این نمونه یکی از اون چیز وقتی که معلقی طرف واسطه نباشه معلق وقتی میتونیم بگیم قرابته بین این انقطاع باشه طرف با دیگری مراقبت نکرده باشه یا یه حدیث مثلا به طرف از طرف خودش حال بده نمیگه معلق خودش رو واسطه نشه نشه معلق از شیلی خود از روایت میکنه؟ شیل دنید او بشتغل در این حدیث مستقیمان لطاق رحمته؟ بالفرد اما بخوطی بر بعد امام بخاری باسیلی جل مورده اگر باسیلی جل بیاد اگر باسیلی جل بیاد امام بخاری متکفله بسرحاتشه غیر اینکه این حدیث چرا امام بخاری مخلاصه که بخاری نگر ایتحان فقط امام بخاری هستی روایت که دیگر این منی مرد سخت از طریق هشام برای شده که ما مشکل داریم شما ببینید که تو اینجا ما این مدار داریم از اینجا از آقا عمارالله مهدی از ادرحمان من منگان از عطیه نجوابه صداقه هشام یاد بدم خب می همین همه از طریق ادرحمان از عطیه منگان ابن جوابه صداقه به شریف اینجا چطور می تونی با این سنت که سکان از بشر بشر روبک که امام و با خود جت را بیکن میاد سخت از طریق هشام برای آشکار می‌رسید که علامت نبودن کاروادب کنند. نیبینید شما در این مرحله از ابن جابر که بعد سادات میاد، از همه ابن جابرام که تیلیان شنیدی و حالا من یک سال بگذارم باشیم. دیگه از هر امام دیما شما ببینید چیزی وجود داره زار که علامت داشته، چیزی بنام تحریم مستقل داشته، و اگر مستقل و تحریم مستقل، که کات یعنی اگر دوست مسلمات شرکی باشد امان بخاری در حالت این رو یک بابی پوچه که بلخاری پوچه که براش می این که درداشت بسی که این رو بذاشته اکسی این رو که ما داریم در برمه بابو، و در حالت امان بزرگی مجرد مكمنه دخل علينا عائشه ام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان ثقنيات بخاري يعني درجه درجه اخر حديث البخاري اوورده لغرض تحريم الزنا فكيف اتفق انه اوورده ده دیگه اینو بیرون باید چهارم هم از من باش و گر بده شما چهارم و یازدهم هر بله حدیث خط، الحرب من يوم العيد الحرب، الحرب من ترك يوم العيد دار كتاب الجمعة دار كتاب الجمعة، بعدها الهرب من يوم العيد الحرب من ميداع خلاص اشتفاد هرا این لیبه هرشیه و درستان سفرد این توی این باب آورده یعنی عدیس برداشت بشه که امام بخاری به این چیز با من براشت داشته با من براشت داشته و عدیس هم آور اینگری نقلا بگیم باشی کنم امام بخاری بردم داخل شد و من در من دو کمیش دو دختر دختر بچه، دختر جوان. جاریه از بچه دیگه تا بزرگ بشه. این جاریه ها دختر میان. آرام بخورن. برنامه بعث برنامه بعث باشه میاد کنید. فدا جعفر الله روی تراش به قلو قبیل وجهه حول وجه او با صورت صلا جردم. از باب قال متمارة الشيطان عند نبيه صلى الله عليه وسلم او يوم الشيطان ليه الشيطان تعمل بيانتان صلى الله عليه وسلم أخامك بمثل بيانتان صلى الله عليه وسلم بقولك انهار بمسارة بمسارة فرح اندامی که غافل شد یعنی ابو بعد غافل شد یعنی تر ازگار شد نیتونه ازمنشیه و معاملی که نیشکوره بیشتادم تو دخاره کستم دیگو احسان شفا رفتن بیوند یعنی ولی کسی بعد یوم وعیدم و الحراف و که سودان یعنی های با الان کجا بوده؟ تو مسیح زیران برد فکر اینا ساعت و نبی یا کردن یا خودش را بود اشتریم تندوری دلکه ها گناه بگونی فکرس نعم کفتم بعد نفر سلطان فرمون اینکه اومد رو فرماییم که و پیانفر گذاشت کشت و به اطلاع شعنه روی شعنه دوش هست و همه یا فولو دونکو یا بانی ارکتر دونه کلمه یعنی این نعم حالا در مورد این بعض که این چه سلامات طلاتیه که از اول اومده اوم و که در ذهن در اصل حرام بوده و چون اینو نمی‌دونسته چون نمی‌دونسته ابو بکر مالش با کرده و حاضر نکرده شما اگه اگر بوده گفته ایش که لو نکنید تا بابر از خواب بجاره اونه این هرده نیجا خوب این برده شما از خوشو ها بردید که چون خرام بوده باید بگید تبینه اون چیزی امان قداری فروح چون حدیشه زنا و شراب و زنا بوده این زنینه دو چون رو درده ندرده باید تبین هم خرامه ما گفته نکنید این کار هم روز فتحه مثلا فتحه الكوچه الكوچه ده همه برشو کن روزی بیره بگیرم اگه یهود همه بیر ناختحر تا ازده یهود بدنن که در ما چیه؟ آزاری هم مثلا با سرش هست ختحر هست قدران میگه حالا این که امول مومنی به ایان نامی کرده بعد نمیگن امول مومنی کوچی بوده تو کوچی بوده شوار من آرزدن دوستر به مرضای احتیال نگاه بوده این نظر میگ درون ته میگه که خون رد درن تا سیشی شب فرموی جسوری ورده ایی ورده امرو بارده ایش میبوشن وید دهیده برنی که مدر نطور ایش آسوه هایی شد ایچه یکه شما داره پرستی شما میدرونی و جوهری جواب دهند نهید شمایی سپرست شمایی سپرستن مصاحبت رو ما داشت. سوالی جوهری در تحصیلات، خب، طرحتون بده این سوالات رو مطرح کنید. هر که از نهای تک از دل این شیخ خودت پیش آوردن، اجازه بدم. آ، موضوع است. وقت قال اجتماع الشف الصلده شضر الشف قرار ايه ده ماشي فضل التاني اصلا ماخخ سايت ما هو ليه هو ليه انا انا عايز واحد بس بس هو فين ده يقول انا زور ذره انا شهلا که 얘기를 گفتم نیست نهایت یک تا دهله تغییره ما ده بشه تا دهله سلام نو 50 50 دیگه یعنی چه دیگه حدیث به کوشش خوبه که در چه بحثی باشه چون بنویسه همین همین ما حقیقتش گفتیم از حدیثی که داریم به حدیث دیگه حدیث بخاری رو رفتیم به حدیث دیگه از حدیث بخاری یک مقدمه می‌خوره پیرامون هم همین حدیث هر که باید یک هست که باید به بخاری اینجا مثلتی هست در بحث همون ارکان قیاس و هر قیاس هر رکنی که پر و اصل و علت بود و همون حب مدکم صادر می همینا همین داره یکی از سروت اللت چارمید بند علت قاصر و مخصوص اصل نباشد زیرا به هنگام مخصوص شدن علت اص در اصل نمی توانید نمی وجود آن را در خرص طب و کبان مباشر شدن افتاری در رمضان فقط برای مصافر و مریض هست. و سفر عمری قاسر فقط بر مسافر و و جایزی که دیگر را بر آن قیاد گرفت هرچند که امشب شد غیب مسافر و بشه بیشتر از از داشته باشد امام آمودی در خاشیت اگر ببینید در احکام میگید علما اتباق دارد در این که متعذیبوننی انت یعنی خاطر نبودن را شد در آن شد سهد قیاده و در بحث همین حدیثی که جناب شیخ خوندن که در اینجا حدیث شماره که کنم در باشه اینجا حدیث داریم ما حدیث آیشه الله انها که ببینید در بخاری و مسلم و احمد و در دیگر کتاب ها اومده خب اینجا این ادعایی که جناب شیخ کردن این حدیث لنان در که در روز عید جایز است تا آخری که که خودشان گفتن جواب جناب شیخ محمدی در کتاب مبانی فقه در بحث الاکی میگویند مطالبی که ما در وقت سیاسورتن جیب خودم نبود گفتارهای گفتارمه اتفاقاتی هست که ائمه نگن بلکه اصولی که در مبانی است که ما محمدی میگه که فا خودش به تنهایی دلالت بر تاکید داره بر علیت داره انها امريكا اینطور متذکر رسول الله صلی الله علیه و آله بیان تا انها ایام عید یعنی بر علیت به این که این امر قاسم در چی؟ که انها تاکید بر علیت این دو قاسم در چی؟ ایام عید ف انها ایام عید با علاقه حال ظ علت قاصره باشه همونطور که ما آمدی گفت اجتماع در که در علت قاصره نمیشه قیاس کرد حکم حسد به فرد اون قضیه است داکتورینات لبیک اینکه ان علت جای شده در دف این است که روز روزی می باشد و این علت قاصره است و در روزهای دیگر این اید این علت وجود ندارد پس به علت این شدن آن در روز این علت قاصره است و در مش قیاس بر این روز قاصره و در واقع بودن این قیاس قبلا ادمان والا وقت نکردی که گفت دفت نمیشه قیاسیده چون اینجا ده زده با اونم اینجا چه عداد موسیقی ما داریم؟ اونم دفت اونم ده یک عداد یعنی یک عداد چرا بابا چه دلیلی ما دیگر موسیقی رو هجوید اگر گفتیم این دفت هست در این مسئله در روز این و اینکه اینا بقید دفت میدنن و اصلا این قضیه رو تقریف کردن پس درستید که هیچ عادت موسیقی با بگی. این حکمی هست که علمان استفاق اگر قبول کردیم که فا این ها دلات بر علمیت داره به اون شکل خاص اگر قبول کردیم اگر قبول نکردیم باید برمیگردیم به ادماء آیا ادماء علمان یا نه شیخ ما الان برس اما گرده کنم بوله به محل ملازان ما برس بکنیم نیست که الان مستقف دروزی ای درستی یا درست نیست شما برس میکردیم و سحب درستی البوکل من ما وقتی خارج دارو ما وقتی اکثر بر که مگر اینکه دلیل از شر بیاد اجازه بده فن قول از قرانكم الکت اگر رخصه متغان حلال دیگه ما دلیلمون میگیم اگر رخصت شده اگر اجازه داده شده ما دلیل ما که کجا حشر استثناء قائل شده این یکی از ادله استثناء شر که با عادت انه ماده بر اساسها تخریر کردن این یکی از ادله که داشت در ذیعه اگردت اما در غیر ایرهام دلما هاکستانی در ایرهام صلی اللہ علیه سلام روسی بود مالایشا تنسار توم برمشه بفتر هل اکنون هل ما من الله فان الانسار يوزیبون من اللہ یعنی برمشه بفتر دارد روشی بکنون بفتر اطایرات و اطایرات و اطایرات اینو که دلیل اینکه باز خیلی از روزگیز باز هم باز حدیث داریم که در مراسم‌ها مثل روز روز عروسی، روز عيد، روز خوشحالی به هر حال اجازه دارید. جان؟ آقا. خب الان اون اون باز داشت بوده افسردیده. درسته؟ یعنی اون که اون چیزی که بوده. حتی ما در حدیث داریم که لیک گفت که یا رسول الله علیه الله صالح من گفت نه من روی سر که پس دستی از اول اگر این پس از بیدیم بیم هم هل... من كذي نقصد نقبل ما مهلا نزايق ما مهلا نزايق إنك روزي إير جايتك جوزي جايتك ما أقرب أقرب ما أقرب ما ما طائل بالتحليل المثلق موسيقيا أقرب ما ما طائل على التحليل مقيد بالموسيقى خدا هر روزه. رئيس قائل است هیچ کاری مگر موجب بدون چوره، بدون فایده، بدون تقوا و دوابت حلال نه. و بعد من که آیه درودی این حلال یا حرامه است. چیزی که شما میگید البته مصالح حرامه من نه مصالح حرام نیست. با شموله و دوابت حلاله. بیان نافوز یه اداده داده دربوز عروسی اداده داده در اداده داده و چرا شما نمیدونید خیلی از دفتیات وقتی که نمید کنار مثلا دو هر که در جهاز برمه اداده دادن در حس اداده دادن بادم چه مرکه می کنن؟ سنایه چون چه مرکه می کنن؟ این همه شابه دربیه چه مرکه می تقریبا الان که بیش از بیست دقیقی یاد داشته باشیم که بیش از ده جشور شد که پاسخ بدیم اولی مطلب آنم این که در بعت عریسی شد عریسی جایز شده بلد صحابه هم گفتن و یشینین هم استنباد کردن اینهو را خسلنه اینهو قد را خسلنه فیل روزی و البته علای ریدی بیغیر نور در اصلاح فقه ها چیه؟ ها در اصول اینه که یه چیز حرام باشه، برای زرورتی با خواهد شد. مثل مثلاً بزرگش کمردان، گش کمردان، گش کمردان برای من حرامه، مطلقاً حرامه گش کمردان، مطلقاً حرامه. ولی کی نگاه کنه در مشاقات دوست در صحابه بیان دریم می‌کنن جای به جای دی، جایی که مربوط به اجازه از اجازه شهر اجازه داده. وای که می‌گن نه اینجا شهر از شر رکسات اصولی هستن، رکسات یک معنی مفهوم شریعی داره. انتقالش رو از حرام به حلال نه به اباحه است يعني یک مسئله و مسئله با دوم باسه اینکه ذف چرا در عرف جایز شده و چرا نمی تونیم دیگر ادوات موسیقی را قیاس بگیریم برده با به‌واسطه اینکه که یک ادوات را قرار داده حمزه در این حدیث چنین میبینیم که رسول الله می فرماید بین الحرام و الحلال الذف و صوت النكاح الذف و صوت این آوازونی و دستذری فشل حلال بین حلال حرامی ازدواج حلال از حرام اینه که ما اعلامش بکنی چطور اعلانش بکنی اعلان آیا مطلقه همه مردان و زنان جایی که شرعاً بازم رفی می‌خاستی برای اشغال شده که میاد مشخص شده و منم حدیث خود رسول الله حضرت حدیث داری رو بیان دارید بدر العوض که دختران ذح می‌زدند نه مردان به رسول خدا که دختران را تأیید کرده تحریر کرده و اونم یک دزداه و اونم یک دزداه حالت روس و این علیت منحصر در در این دو گفتیم با تأکید می میاد و تأکید تحکیب میکنه و این شده بازی هست در شهر و مقهوم صحابه و فهم صحابه هم اینه که اینجا رستد شده این دفت زنی در عروسی برای دختران و هیچ یعنی هیچ دلیلی ما نداریم که نه از صحابه، نه از طابعی، نه بعد از طابعی که ها دفت بزنن نه که بگم عدوات شهر این, و ازده دارم میگم این که یک مسئله، با شهر امده استثنای قوی شده حدیث آموزشه. سومی مسئله با اون هم اینکه، من برشید تری و آموزش دارم میگم اینکه یک مسئله داریم اینکه ما اگر یک اصل کلی رو داشته باشیم نباید رو که رو باش، باطل بکنیم یعنی ما مثلا بقول معروف حذف بکنیم. اگر یک دلیل تری اومد ما بر طور اون نمیشه بر اون قیاس اسیره یعنی نمیتونیم بر اینجا شرق آمده دفره, دفره ده ایجازه داده نمیتونید شما بیایید عدبات موسیقی دیگه را برایش خیاف بگیدید چون عدبات دیگر موسیقی نسط تریش در شور بشه اومده که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم می الله را حدیث همینجا در تاولو ببینید مثلا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چند حدیث ما دارید حدیث اولی شو ريدوها؟ إن الله حرم الخمر والميسر والكعبة، وقال كل مسكر حرام. كومر حبل حرام كذا. حديث النزاع ما محمد مبين تماماً ولما سقط النزاع ما محمد بل رفعه من جواب مبين ليته بعذل الله العباس. نبين حديثناها. حديث يره حديث عبد الله العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكعبة والغيرة، وقال كل مسكر حرام. حديث عبد الله العباس. حديث عليه حديث قيصر نسأل عن جوابه. بلان الله في تبارك وتعالى حرم على علي الخمرة والكوبة والقني كعبة هي مطلوبة والقني جعوده وإياكم الغبيقات إنها كلها العالم حديثها موت مجنون أصلي ثاني كده ساقية إذا نيجي كحديث نيجي الصحابي أستاذ الصحابي داري بمعصومين حديث إينك يا أديب أداقات حرامه تصدقك حرام صوت نمشي قيام جرب بريك شيء حرام يعني أنتي يجوز إنسابش شو عمل بيجي تروسي كباريون بيوس ما اینجا از بخش اطول میکنیم. کنیم امام شابیه میگه قبل امام شابیه بکنیم شروط فرق هر وقت شو شروطی داشته باشه دلیلی از قرآن و سنت تعییز و اجماع بر شکم فر نباشه زیرا در صورت وجود دلیل شربی قیاف معنای ندارد با و اشتحاد باطل است دانوان مثال مؤمن بودن برش به هنگام آزاد کردن در کفاره قسم که وجود ایمان در کفاره قلب و کشتر اشتباهی است که باید ما نباشه قتل مؤمنم خطم و زهنی رقبت مؤمنم اما در کفاره قسم چون دلیل قضعی داریم که مطلب برده آزاد بکنی. دیگه نمیشه گفت چون در اونجا در کفاره قسم ما داریم برده مؤمن اینجا هم باید دیگه برده مؤمن خیل چون نفسی نفسی خاص داریم برچی در اون حدیه خاص و اون کفاره قسمسی خودان ک نمی تولیون حدیث او كسوات و تحرير مطلقاً مجل نمی شغونی بر این حقم حقاً است امام شافعی در کتاب رساله میگه در صورت وجود خبر یا دلیل قیاس درست نیست یعنی اگر دلیل ما حرمت یک چی طرز دلیل رو دلیل صحیح در فرمتش میگه نمیشه قیاس گرفت بر که بگیم چون اونجا درอนุญาต شده از قبل و دو هم جایز میشه خیر مطلقاً قیاس اینجا درست نیست حالا هرچی این که حدیث بخش هست این چندین بحث رو که رامونی مطلب شیخ یعنی تقریبا هفتش به حدیث هم سر کردم که مطالب الحدیث به حدیثی دیگه داری می من دوست داشتم که اول به حدیث من بخایی به پردازیم شبهات و اشکالات و اعتراضات پاسخ بدیم بعد بریم به دیگر تحادیس پله به اصلا در مورد این حادثی شما قرار موید اتفاقا امام نحس نحس من درستی چونی خور شما برمدن یه حدیث رو خورمان امدن چیز کردن امدن بررسی و همه این حدیث رو تسلیف کردن خبیل تلیمش در این دلیل برد دلیل خلحات و برحانه کن خلحات و برحانه کن دلالی درست یک یکی اینجا همه اخوضی کن بردم با شجری اتنار با احکام علم ها همهش کن بردم توی تابلو هست تک به تک کجا هست مشکل تا ما بیش باسفر بیدید خالی شکل نیکی من دوشید مکنم یاد من بیشتر کتران هایی که در مورد غنا خوندم بیشتر کتران به موافقان تحریم غناب بوده درامت که کتران ها خودم که گفته بود در مورد زن, مزام، زن مزاموی تقریبا حتی حدیث باید شده اردین ستا هشت راش تریقه حتی پاس و ایشتر که برمیش تریقه و برمیش تریقه نیست این چیزاییم مثلا شما چیدی که طریقه در طریق بودنش اجمالی دقیقه اتفاق نیست تنها شیئی که شما دارید، طلحایی که دارید اون حتی توخالیه. و آخرین وقتی شروع است این بودنش اتفاقا نظمی و در واقع علما در مورد حرمت موسیقی اختلاف نمی کردن. کسی مثل امام شافعی شا نمیگه که تحریم موسیقی حرام زاید نیست. الله گفته تو شما در بیان. بیا. تاشیخ پیداش میکنن <تصفح> آیا ما احکام مول محسنه در این که باید حدیث به مول قدی کنید از ادبا شد سلال بکنید بباسد تاکه اوی ممشافی و ممالک اگه حدیفا ما تش بگید چرا؟ اره چون احکام احکامی کسر به اجماع علماء به اجماع علماء لازم نیست در احکام فقهی احادیث بلتباطر باشه به با قدید باشه با احکم مدنی حدیث اگر راویان ثقه بودند می‌بینی عبدالله بن عباس قیس بن حفتر عبد الکریم ثقه ثقه و اینجا امام محمد بن حنبل وادی کنه کی مشکلی داره این اسناد آیا این کین احکام این دلیلی که میاد برحرمت یک چیز و دلیلی که اومده بر یک مسئله اعتقادی نیست که علمای اصول گفتن یک مسئله فقهی است آیا این مثلا اختلاف نمیشه به باید حدیث متواتر باشه اجماع جماعات. علاوه بر این جماعتی که خطاب آیا واقعا ذی اعم از علمای رجال درودی خاص قصد تفرد ندوت داره. دو واقع باقدر وجود داره. خب وقت علما جما تعلیل کردن آیا ما هر خبری در راوی میدیم که شما بپاشه گفتین ما میتونیم حرف شما رو بپذیریم هر حرفی مورد قبوله. علمای جما تعیله جرح تا وقتی که متفسر نباشه تا وقتی که شخص. ثابت نباشه چی گفته مو... و چرا زید حدیث نمی‌پذیرید این قاعده متفق علیه پیش علما و علما در تصدیق وقتی که جرح مفصل باشه کسی نمیاد تپین که شما به من بیارید دلیل بیارید که فلان راوی الان مشکل داره یک عالم گفت ضعیفه دلیل بیاری جرح مفسر صرفه کنید هیچ وقت محروم نمیشه با یکی با یک دلیل ظنی جرح در تعارض جرح با تعدیل تعدیل مقدمه در مفسر مفصل باشه بله گرچه اما اگر الان است که یه جوریه. یعنی حرمت موسیقی جز موسیقی ما الان که الله بگه شد باش مدت چندش داریم با حدیثهان نه انشوامیه چه یا مذیبی روی مسئله اگر با این مفید کاتو یعنی این عادی مفید کاتو من یک شارب از نما دید که غلاما که تمام خودش عامل به تعظیم و تعظیمه باید نشناسه حالا میگم راست قوم اولادها قوم وقتی من از قوم نکردم درو اجازه منم قوم داره اجازه عامل و یقال الشافعی عنه الله شجع ان يستحزم الغلام والجاريه فكان يجذو علىهما، ويسأل لذلك من أجل ذلك. دليل. وهذا. بي. يجذو علىهما، دكتور وفترة اندرس، أوازحنا منار فهذا أساساً جناب دبي شادته وهو في جارية أكثر. تحرير محل نظر وشئ أوازح بس قل بما بأن ان في تفهم ديا الان كان لا يشكل عليه ما راى خلقنا كره لذلك ولم تكن ولم تكن في مطلب بشانه وهذا ما نرجو يا تسلي يا شباب يوصل هنا ويشاء المغنم ان كان لذلك مؤمنا ما لذلك لكان مستعلما مظالما عليه مشغولا فهیا به منزلت تفاين تولدت وراه شهادت و را امکان دارد که کمی از او لام تولدت وراه شهادت او، خصفت من آن دارید هیچ تحرام نیم. که میشه تخلصش رو بذار. امام شوایق داره که با جلد شورام سهین و دوازده. چوبش هم دیگه برام بخورش دوست داریم. چوبش هم دوست داریم که خصیصه تمیز. چوب دارم امام شایی گوید در وقت بسیعه اگر بگویید به کسی که از من عرض میبرد تبلی از تبلهایم بردید من میخوام بمیرم میگم به پردندارم تبلی که خدا اگر آن تبل استفاده دیگری جز تبل دادن با آن نداشته باشد درست نیست که آن شخص آن را بگیرد اگر آن تب تبل فقط بهاش تبل میدنن درست نیست که آن شخص بارد ازش از بگیره مگر این که آن تبل در جنگ از آن استفادهش یعنی تنگ جبل, جنگی، سرد جنگی در استثناء هست. و این همانند این است که بگوید بهوارسان حیوانی از حیوانات روی زمین بدنی که درست نیست به آن وارث خوب دهند و هر که بگوید طرب دهی، یعنی بین خوب و طرب نیست و همانطور که گفتم اگر طرب برای غیر از طرب از آن استفاده شود، در یک قاعده وندرس و اگر فقط برای طرب زدن استفاده می‌شوید وضعیت کردن به آن نزد من درست نیست و اگر بخوید خلوتی از مالهام بدهید اگر استفاده دیگر از بود زدن نداشته باشد آن وصیتم نزد من باطل است و این گفته شامل تمامی ادوات نقدین باشد و اگر بخوید خلوتی از مالم بدهید هر خلوتی از نقد یا چیز دیگری که برای غیر از نقد زدن استفاده شود موه بدهد و اگر استفاده دیگری جز نقد زدن نداشته باشد نباید جایی دیگر جلد کاران سفیلی سفیلی سفنگات نامشاقین بیگید در صورت این قهود یا نیل و تبری را خورد کنند آنها اونجا بسیار بود که درستید اینجا چون حرام درست کسی بسیار بکنند مثل خوک اینجا در بحث چی هست؟ در بحث خورد کردنی در صورت اینجا اون یا نی و تبری را خورد کنند اگر برای کار غیر از موسیقی زدن از آن استفاده شود، باید آن شکسته را جبران کند و اگر فقط برای موسیقی از آن استفاده شود چیزی برگردان او نیست هلرمان حق تعریض برش نیست من زنم بود فلان رو خورد کردم قیمتش به معنی نیست چون فقط بود برای او زدنه. و هر شخصی نصرانی یا یهودی یا مشرک آن وسیله موسیقی فرد مسلمان را خورد کند و یا مسلمانی ادوات موسیقی آن را قانون را خورد کند تعریض و جبران آن باطل است امام راحه الله از مامشافیه چینین از گفته های مامشافیه بدون هیچ شک و تردید چینین فهم بینیمی شود که تایر عدوات موسیقی مثل نیم هم حرام است از این گفته قبولندی گفته این ترقی نداره در نظر این که تمامی عدوات موسیقی حرامه و ارث گذاشتنم درست نیست و حضرم هست دیگه گفته مکه نکنم واضح تر از این باشه اون حرفی که جنابشیه خونده بس غنا هست ما بس م اول هر کس خدا جنابعالی گفتن اون آوازی که به گنجش میخونه اون آوازی که زنی میخونه مردی میخونه هر کسی میخونه بچه اینو میخونه ولی بحث من گفتید تاریخ معلزه کردن گفتید بحث من آهنگه دون موسیقی که با ابزار آلات تولید میشه و اینجا هم نقطه تری از امام شافیه هست <تصفح> سبحانه الله من از امام هذيك از علمای موافق و نو عبد الكريم شیخ عبد, عبد الله الخديوی ایشان خودش طالب تحریر مصدق است و خودش در این جداشت الخمر لانه بلاك من الذي يتأهل الحالية ويستحيل لأن ثقوتها ليس فقط أيًا لرصة إلا حفظ ما يفتحنا على حفظه شك ما قلت بل أربحث لا الفرقيق لأهذا بيستخدر خباركاته بل أحكام بش. يعني تمامي كتابها يتفقيش ومعبوك لي أحكام الفرقيق لا يوجد مش دليل قريب واشيك الحديث متوتن دليل دليلة غنيها بيش طابتة حفظ تنبوك مشه البدايه جناب یج یه مسئله است ما میگیم اخ در اشیاء اباحی چی می‌خواد نداری اخ در اشیاء در غذا در چی در غذاها بله ولی در در عبادات منظور کنه عبادات در اون چیزی در علما در عبادات و در غذا حالا حتت عبادات شما اگر چیزی را با دلیل خفیل با دلیل سمیل که حریم دردید فکر نمی کنید بارد تقابل عن الله بشدید چه خدا من می فرمه بلا تقبول الله محسف همه اینما متقابل بر خدا هستند که تمامی کتابهاشون بر احادیث را هستن کل احادیث متواطر قهر احادیث بشدید پس همه اینما چون زنی متقابل بر خدا شدن پس کافرن بر هر افکاره خود. کافر نیستم. من اون شیلایی که اعلی میگن، اون شیلایی که اعلی میگن، اونها عدلش قطعی است. قطعی. کتاب امّم مشرفی. عدلش قطعی است. عدلش کمی قطعیه. عدلی متفق قطعیه نه؟ خیره. یعنی احساسه به از اینید خوب. امام شافیق 1800 حدیث داره یعنی 1800 داره از احادیثش زنیتی بوده تقنیتی بودی نیست پس امام شافیقشون دانی... اصدار زنیتی بود کرده مختلی بر که بنده بدل اینه که برسید که شما چیزی را که قفلی نبیدونی حرام هست و بعد دیدی که اگر کسی این رو حرام نمانه هست. کافره کسی <تسخن> کتنق کافره جناب شیخ موظفتی تعبیه یک مسئله خاص خودشه ما گفتیم یه انکار مسئله کفر درسته شو کاریش تحلیل تحلیل مسئله کفر نه اگر من از طرف من باشه که به قول معروف تخصصم حدیث به حدیث به قول معروف مثل روز برام روشنه من این کار بکنم کفر اگر من ولی که اگه از طلاب ما این کار بکنم هیچ وقت حالا شما گفتین اشتباه بله ولی هو. بحث اشتهاد اجتهاد، اشتهاد دیگه هست چه مزالی ما حق اجتهاد داره شدیم مثل یک رفت نسل در اشتهاد باشیم اگر اجتهاد میخوام بکنیم در مقابل نسل داشته یعنی شما بیارید نصی که در مقابل این نسل واقع بشه کی این کامورا باید بکنه؟ هر هاتی و ما نکن. بیارید ناسی کیم اینا اگر اگر نو اگر در مقابل ناس بگوییم کافی نیست؟ نه اشگفتی اشتهاد در مقابل ناس کافی کووند؟ کافی نیست؟ ناس کافی ما ما گفتیم کسی اشتهاد بگوییم در مقابل کافی کافی بیا نه این که خیلی از پس اینکه خیلی اعلامات در مقابل محر شرایط و قائل شدن به که مستقیم حرام نیست چرا چه موقت است؟ چه موقت اج... اشتهاد جایده دهد؟ اشتهاد برای که شاید نه نه داشته باشیم از القرآن که اشتهاد نه تو حالی بل يرسل چرا برید به قول فنان الله الله ابن هل وقتی هر کسی میگه مخطوشه غیر از اینکه اجماع در این مساله میخد بيكت من اجماع رو براتون بگم شما دیگه کدوم یکی این اجماها مشکل داره مثلا به ثاب امام انصاری از امام میکنه که بر امام میکنه وقتی که میکنه وقتی که میگه که کلمات بدعه و بغلاقه امامته ان ابعث اليك من يذد جمدتك جم جمعت تسيو يومنا الجديد ترى يا امام اجلي امام نحجر مثل اخرين مثل ابو بكر و ابو بدر دار ذكر اسماء ميات شين هذه وتوسي بشين تلك انان تنهاي و ابو هيثمي و اكثراني كه در تحريم ادوات الموسيقي ايمان امام پیغمبران متاخرين امام ابو القدر سليمان بن ايوب كان هذا تحريم مستيقف، إنه مثلياً قبل ذنب النحاز بدل. أصل اختلافه، اختلافه إنه بنبحاز برأي جماعي، أصل اعتباره ذري شاذ، ومية حالا ما گفتن که ابن حزم گفته در مقابل ائمه یکی امام بابری متوفات سال 416 در هر شروطه صفحه 100 ما در تحریم alat موسیقی و نای و های بدون استفاء امام ابن عثمون تمیمی برادر 492 از علماء شام درباره فلوت یا نای میگه که بلکه در برابر دیگر alat موسیقی که به اجماع تحریر تحریم امام ادعوات که به دلیل مسئله نیقوله ثابت ادعوات برکثه گناه است که علما در تحریم اجماع دارن یکی دو نفر نیست ما یک نفر داریم و بحث میکنه خود علمای علما اولین اندکی که اجماع رو انکار کرده kia یک شخصی به اسم کی نظرا نظا که اینجا مثلا ما داریم در مخالفتش با علما امام طردی توکی در کتاب ال بهار چقدر دوست می بید این نظام که مخالفت با اجماع کرده و اجماع را اتکرده، کرده حق نهروی ابراهیم سیار نظام باشد در بازار بس کارش باستان و دختم بوده و اظهار مذهب معتدل را نظامی اون داده می کرده و برای این نظام می بوده می شود، بلی از زندگی بوده و برای بار کردن بر شریعت اسلامی اجماع را انکار کار کرده است. و همه اینها زندگی باری است که الله او را لعنت کند. کتابی دارد که در آن خدا استگانه را برای خدا یک را تجد میدهد. و تظاهر به با بهاعتداد کرده بدین عت که از شمشیر شهر بدین با قرار میکند میما اقللا هم صلت و قبول ندارد. تنها کسیی که انکافات نقاان مختلفلی است با ما همه گفتن که این یا زندگی ملحد یا شخص متبربان و ملرج ده. این به است که اممه صول دارد اونمما که همهطور حرف نمیزنند عالی بیا یا اجما نقد میکن ینی چی؟ یعنی متعهد میشه به این که هیچ اختلاف نداشته گفتم امام بخاری وقتی که نیامد حکمی هستن با دغونه بخاطر شیر خفه این بوده اختلافی نداشتن علماء در مسئله موسیقی همه اتفاق نظر داشتن به این قضیه یه چیز قطعی بوده نه یکی شما فکر میکنید بذاره اجماع روش ازلی اجماع مسببین تنها ازلی اجماع نیست مذاهب اربعه هست امام ابو حنیفه امام ابو نزده امام به عنیده این بوده که در اجاره دادن ادوات موسیقی حرام اجاره دادن از عدوات موسیقی حرام هست بشه کستن آن واجب است. واجب که ادوات موسیقی خود بشه امام از بیجاری که در سان چاکتر خانده بود به دنیا آمده در شرق کافی که این میگه از مذنب آنما عنیده اجاره گرفتن بر آباد نوع و نوع سرایی و و تب و بازی های بیوده و حداخانی و سنونر شیخ و مع و در در این عرب و فاتح در همه اینها قول حنیفه ابو محمد بن حجن دیر این که ها رونا هست در حتی به کانی و دیگر مسائل نهی که ابو حنیفه امام که در کتاب مدرنی آمده از امام سکنل تنویجیات امام عبدرحمان ابن قاسم طاویره آیا امام مالک زدن در عروسی جایز میدونه یا نه باای اجاره دادن ها رو جایز میدونه یا نه امام ابن قاسم میگه امام مالک و دیگر ادوات موسیقی را در عروسی کرامت نه هرابی داره و آن هم به این علت که من از سوال جایزه و او از غیره فلسفه گفت چرا میگه اولا امام مالک قادرو شاعلی لكن معذور کراهت چیه امام امروز فاتح در مذهب زینه اینکاره. در بند دوم دو میگیره امام مالک. وقتی که امام مالک سوال گرفتم، وقتی که فاتح گذاشت مذهب، وقتی که مالک ترکتنه این کتابها، این کتابهای کتاب شعر و سرایی و کرهاش شمرده اجاره دادن آن کتابها برای مطالعه نیاز یعنی کتابی هست شعر بریش. کسی می‌خواد آواز بخونه برای اون شخص این درستی که بروشی. زیرا چی؟ زیرا چی که ترکتنه آن درست می هجاره دادانه هم دروس نید درست نید باشد پس مقصود از خراحت دیگه قادر هستم گفته ای امام مالک آره نه اینی اینید گفته من نکنم همام مالک امام شافعی امامی اطباع امام شافعی موورتی و شیرازی و رافعی و نوبی و غزاری و دیگر امامه خاطیب برای تو می کنم یا امام مالک هم، امام محمد هم خاطیب و اطباع امام محمد هم برای تو می کنم الیه قابل ضماره اینکه اصلا و اجازه که مثلا علما چنین اجازه ای اجمال در این مساله اصلا هیچ و مشکل وقتی که معترضی باشه. مشکل وقتی که معترضی باشه مثلا به فرض امام تبری اجمال نقد میکنه بعد یاد یا شخصی با مرور زمان انکار بکنه. این وقت این اجماع مشکل. ولی وقتی که کسی نیست به امام شافعی یا امام فلانی میگه اجماع میکنه بعد معترضه نیست یک کار میگذره فاصله هم میگذره بعد کسینی سی بات این کار بکنه دیگه چی دیگه اون خالص شاده چرا مثلا مثلا ما بل من مینکم امتیه تو یا ال خیر و یامرونا بالمعروف و ینهونا عن المنکر و اولائهم المفلحون امام علی بن بخاری ذکر تک الاسرار در اسم جهل معروف و منکر لازم استدراک و در بدر تمامی حالاته پس آنان به هر معروفی دعوت دادن و هر منکر را نه کردن یعنی غیر منکره که یک کاری باشه بگن حرامه و هر فصل نادرست باشه یکی پیدا نشه بگن که حرفت را درسته امام تبری ادعا میکنه کنه امام تبری هم رضا ما به نحط بوده برحسیده باشه که برش ایک کار بکنه اگر آنان با حرام خودشان روی اشتباهی اتماع کنن در این حالت اتماع آنان روی گفتار منکری بوده است آنان ضعبت ضعبت جل بسیع منکر بودن و نشکنندگان از انجام دادن معروف که بازده این آیه متناقض است هر یک دسته نگیم چطور برای پذیرش ما الله برئب. مشیر که وایدایش ما رو برمیشیره، دوست داریم که داده اون که تا حالی میامرسد الله شده در زمان ثابت میامرسد، زمان در ملیم بوده، نیت امکانش ما داشت، همه با هم بودن همه داد کار هاند. بلی داده ام که ترجمه شده. شاید یک ولایت شری، یک مرد خیلی ولایت شری روم متری متن تبادل، اونها رو بازدارد تبادل میکنند. یا نباید غریب تبادل میکنند. با چرا باز هم اینا مثل ایشمار با یک شی در مشتری شو یه مادر مثل اول مثل اید که این که اجماع وجود داره وان توید شما یه ده هم احب تصالیم من غیر احب تصالیم احب تصالیم برای محلی دارم در میان و در میان بانش مندان اسلام جایده خوشوندان و قائل بحرمت المسیقیم نیسته دارم مثل اولفر محمد بن قاهل ایسرانی یکی از محذف و فبای شاقیه در قرم فخشون مواصل افمود درست نظر دادنی دو نیامیم از کتاب ندارد میکنه. یکی دیگه که کاری که تعریف میشه که آسان نیست، که درست کار کردنش در مورد آن را خیلی دوباره بیانه، جمله، کلامی دیگه. این ياخذنا شئ كمثله أبو بكر ابن العربي ابن العربي الصوفي ابن العربي الصوفي ابن العربي أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله النشريبي الأنذلسي المالي. اين قارب جلخناه قارب جلخ إمام اسرة ابن حبب اغنم دازداری نه تا اینجی که اینجی شیز می‌کرد. مگه دوتا بهتره بود تا هر باید بده. داد خود دازداری، خود دازداری با دیکی شد. دازداری که خوندیم برایتون شد. نه، دازداریه.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 گفته شخصی که دایج ما در مثله می کند آن اجماع دروغ است پاسو بکنید. گفته بکنید کامل چیه؟ گفته کامل و کسی که دای اجماع کند دروغ است اما محمد شاید مردم اختلاف داشته باشد از کجا منانی هر درست باشد این دای بشر مدرسی و او بکر اصم است او بکر اصم اصمان امیان سرزده است بشر مدرسی در میگه امام حجر در حال بیزا بشهرم قیاس مردی و گمراه هست نباید از چنی چنی روایتی نفت کرد آلا باش این مسائل اون چیزی که هست الان امام احمد اجماع و قبول داره و این قضیه متباتر در حذب امام احمد یعنی این چیز به هست اگر اجماع قبول نداشت اکتناده به اجماع نمی کرد و اگر اجماع را در این گفت نفت و گفت مدعی اجماع رو هست مدعیان همشون ابو بکر اصلا مقصدش بوده حرف کامل بخونید شما این ادعاهای این اجماعی که نقل میکنن ادعاهای بشریتی و بکر اصلا نیست نه نظر علما به طرز شوبانه اینجینی بشریتی اصلا اصلا متن مذهبی نه نه اینجینی نه شکریگر دایی از مادر مسلی میکنه که آن از مادر دوغه، آن از مادر دوغه، و کدیگر دایی از مادر میکنه دوغویش شاد مردم مسلف داشته باشند. این از دایی بشر و بکره آسمان است. نیروی دنیا امام محمد مسلم کرد، چرا سرای امام قبول داره. ابو داوود در مسئله دا دا امام محمد نمیکنه. میگوید شیرینه که امام محمد گفته شد کار از طریق فاطمه پوشش تر امام از فرموده الله و در قرار کرآن حتم هنگامی که الله آیه مسلمانش میفهمید خات شده. امام احمد کسی اشکاتی می کند مردم اجماع دارند در این که این آیه در شأن نماز نازل شده اجماع قبول داره نداره یا مثل ابو یعلا ادعا شده بوده که ابو یعلا زمانی اجماع علما اتفاق دارند اگر فاصله زمانی کوتاه نباشه اون اجماع متبره این اتفاق روش الان مثلا بفرض اینجا می کنه با امام سفی در رفع حاجت در مورد اجماع سفیودی بیا اگر خطا تکرار شود و مدت آن تولانی شد و مخالفی در اون مسئله نباشد، سبب قطعی شدن آن می شود. و اکسلاب در این مسئله به تولانی بودن مدت زمان یا کوتاه شدن بر می جادن. و به این مسئله معلم تل متانی اشاره می کند و آخر این باطل است. تا این مسئله می‌داده؟ جوش مانیه که بعد از پاش خواهد برد که سواری به آن باطل است در شهر متقارن شده. حالا که می‌شد، انبال دخالتی به هم نبود و باطل هم خود اسامی افراد که بزنی این میخواد برویم باشند. اولی اتاق مثلا در شهر با مجموعه کرده. و اتاق همون شهر خبرداری میشودند. این باشتنیت که اونجا ایجاد شده. خیلی باشتنی که دایی نشون میداد. چه نگاه کردی بات ایمن، اون دارن. خودم میدیم مثل ما بخوری و فلان و فلان. شهر به شهر تک شهر همیدار تا. کتابها رو میخونن. همیشه داریم ما وقتی که انکار میکنه روی عمرم نبری. مگه همیشه اینی گفتم گفتن که اتفاق در نزد علمای اصول اجماع سکوتی همون که شیخ عبد هم میگه اجموعه سکوتی وقتی که یک شخصی حکم صادر بکنه نه یک شخص من هشت تا حرف زدم که ادعای اجماع کردم وقتی که یک مخالف وقتی که اینجینر معاصر لب شده یک مخالف نیست کلا حرف معتبر این یک مسئله اما بحث ابو طاهر قیترانی رو کردی ابو طاهر نه اون اباست عین شافعیه که ما این شاملیه ما من اینجا شیش تا مثال آوردم امام مابردی آوردم، شیراتی آوردم، راپری آوردم، نوزی آوردم، غذاری آوردم که همه اینها قائب تحریم هستند امام عرفت ابن طاهر قیترانی، امام حجب در لسان میزان در دار داره این مذهب به یک ظاهری بودنی کابه ابن حجب هستند و فی مَذْهَب کُده و امام ذهبی در میزان نشا یک قبیلی و تواهمات بود تعریفات زیاده این شخصی که متوهمش زیاده سوء حافظه داره شخصی که صوفی مَذْهب اهل ظن ندیدم آواشناسی هست چگونه با اشتباه قالب بشیم ائمه مذهب امام ماوردی در کتاب احاوی در کتاب حاویش میگه الا کر من که الا همون بحثی مشابه تکرار می‌کنه ادمان عرضه در حدی تحریمش امام شیرازی همیتو امام رضیان همیشه امام رضیان می بیند ادابت مسیحی مثل عود و تار و دیگر ادوات مسیحی به همچین سریع و بود در از دید بودن آنها هیچ عادتی نیست زیرا از پدر آنها حرام است. که این گفتند از اتباع امام شافعی رحمه الله و رحمه الله و رحمه الله ادمی فقط یک نفره ابو الفضل و نام ابو که صوفی مسلک و ظاهری مسلک بوده شبیده ما این حرف اعتبار بیدیم و بگیم که اجماع با این مخروم میشه چه فقط ابو نیست امام غذالی هم هست یعنی خود امام غزالی امام غزالی منظور نمیبره اصلا امام غزالی میگه رو حرام کردن و با استثناء می کردن نه امام غزالی گفته اگرم حرامه نه بخاطر لذات شه بخاطر چیزی دیگر یعنی اگر اون چیزی کار اون بخاطر لذت بخشیش نمیگه که اینان انواع که بدون ارزش متناسبی زده میشواد و لذت بخش است نیست حرام حالا چه برساز، ما متناسب باشه، نباشه همینطوری بگید تبه زنی، بلادن نیستی بازم حرام. امام غزالی میگه: نفس شب هست، میگید مخلفاتول، بس قضاوت بکنید. ولی گفتم، الان ما از ده کاری که وقتی بعیمه مذاهب و بحث اجماع و, و, و, و حدیث مونده، ما گفتم من گفتن 19 حدیث دارین که واش رو بزنید، ما خود از حدیث من بخاری بس لازمه. محمد، حدیث قبل از روی احادیث روی این عقاید به خاطر اینکه اگر واقعا روش اعتقا نه در بود و به حق بود کلی عملی وصای جزء یقینی و قطعی بود. دیگر دولت رو که در نظر می شیخ چطور ما عزیزای شما رو عزیزای خدای بلی، اینم داره. خدای دیگه‌ای هست تعریف می‌گرا. شیخ چطوره که 4 مذهب اتفاق دارن ائمه و اصحاب هم با اتفاق دارن به این حالا یه امام یه جدیدی. خلاص ما این میگید غزلی غزلی معلومه از سویی اون موقع که سویی مطلق بوده، فلسفه میگفته، فلسفه میخonde، بعد از کم بوده. بوده. هر هر کس چون ما بسازید، بخواد که میگیم سوییه یا زندگی یا مورد. عتبار بشه باشه معلوم بشه که هر هر کس بشه. انجام دادن، انجام داد فراتر از بنده است تبینی. شخصی که ادالت شنافس ناشو نمیشه میشه بیرس دلاته حرکتی کنید دین که کوچکی کچه نیست، حرکتی با درستلال بکنه دین برای قدش تخصص میخواد نواصل کمانسوغ میخواد فهم لغت میخواد قواعد لغت عربی میخواد به <تصف> افتران بی کنید با به بی کنید تحبیس احرام بی کنید فهم با حفی الموسیقی میشه بشه نه شد. من این حقی ندادم من گفتم امام غزاری معلومیست کجا گفته چون اون حرفی که ما برخلاف آن چیزتی که شما میگید امام غزالی و از این صداها عدوات موسیقی و چار که به آن می میشود و از انباع نی که دین آنها را حرام دانسته بگید دین دین آنها را حرام دانسته از می میشود این از جمله صداهای مباح ادوات صداهای ادوات موسیقی استثناء می شود بلکه می گویم شنیدن انواع طار که بدون وزن متناسبی زده می شود ودد زد بخش است نیز حرام است خودم یک احتارتمون گذادم او بلا دیدیم. حد و شما اینو داخل اون بذار. که میگه علم ایمان خداش میگه زنوار و ملایی و هر قرار <تصفيق> است ند خاطر لزمه استخاطه متعلقاتش چیزی خاطر نیست. अरे ما از این طرف شما شما میگه هر چند تحقیق <تصفيق> و سماع یک محفوظ. فهم ناقص من عن الاعتدال بعيد من الروحانية زائد في غلب التبع و تطاقته ام الجمال و الفيول برعال جميع بار فإن الجميع سعطل بالنغوات اللوزونة العتمية ما نم يحذكه الربيع و ادهاره فنعوذ ما اتاره فهو فقاسد المداد ليس له علاجه این جميعا سعطلیه اونتی باشم اجتوری و حرام یعنی من دروغ میگم که وقتی که من میگم من میگیم سوال یه دارم چرا اصلا شما جو شده جای واسه واضحه که سریشه سریشه لکی دیگه نیست که من دارم میگم میگه از جمله ها این صدا استثناء چه حالا ما باید بگیم به خاطر حادثه ها هستی那里 شما بحث لذت بخشش و لذت نبخشش اینا بذارید کنار مثلا بفر شما گفتید در صحه مسلم دعا کردن که حدیث فرمات مثلا می‌گند تو صحیح مسلم از دو تا یکی دو مسلم شماره 39 از 57 که از دو طریق روایت یحیی و قتیبه که جرأت نوشتوره کهitone زنگ داره، आवाज داره، آواز خاصی داره. نرزی با در صحیح مسلم، اینجا هم داری مسلم که امام امام مطلب روایت پیدا کردن لا تتحمل الملائکه رفقه فيها كذب ورجله. رفقه یعنی رکبی مجموعی که همراهش زنگوله باشه، نمیرن چرا؟ هلیت برای چیه؟ این چرا حرمت حرام سنبغات لذب بخی بغاتر نلذب بردن؟ این حدیث بر چیه از زنگوله زنگوله در سفر همراه رک باشه به حیبون بسته باشه نه به انسان اون صدایی که تولید نکنه سنبه میشه فرشته ها رانده بشه چرا؟ چون مزمار شیطنه؟ لا يكى، إيم حليس حليس برهلا ده زهيم مسلم، حليس عبد الله بن عاد لاس تخبرون الملائكة ركب معهم الجرجج، أمي حبيبي لاس تخبرون الملائكة رفع التفليجات، بس بس زهيم مسلمي، إنسا مسلم هات يوني. شو ما مجنون يصير ما، على على شو مسلم هات ما فقط اكتشفون بقول بعملنا كجراش حرامي، شو ما استجراش مسلم بعد راسنا كخير، استجراش ده دجال، شو مسلم هاد حامي، ترى ما صار داري. که یک تخم مثوتی در یک چیز خارج طالب شد یک جو ثابت شد یعنی حرمت زنجیرش با حرمت میشه شما piBa... من هر ذریبی بیاد با اثناد صحیحه با بپدری تا وقتی نکاهد کذاییه با که اون درود و اون تبلی که ناس تاریخ ما در شهر، در مستن و احماد ابو داوود و دیگر کتاب ها که من از صفر تخاور گفتم باید ذریبیاری تو احادیث ضعیف شد من قانونا جانما میگم لطفا کجا شما میگی که من مثلا وقتی در مورد ده نادیده شده من فقط مخیلاً اتفاق می‌ندنه همون ده و نمی‌دونم من من نگفتم چی من نگفتم این این اجماع روش یعنی این ها نه استنباط من چهار مذهب میشه لغت اصول فقاه مراعات بشه همینطوری که نیست هر کسی برای خودش چه بکنه استدلال بکنه برای, برای خودش یک دلیل حدیث و متن روز دارش استفاده بکنیم همینطوری که نیست سیراه برید دروشه استفاده بفرمایید رو و روحتری شما فقط دلیل قران و حدیثه قابل احتساب میونند معلومه که شما ثروت و نظریه ندارید مثلا شما مشکل که تو قرینه literature تو راه هست و برستانی درسته بر بگردون رو خود احادی جمع احادیتی آوردن جوهری بر تحقیم و نوسفی آوردن احادیتی آوردن دلیلی بر تحقیم و تحریم و تحقیم شویدن و بعد خودشون رمایت کردن و از, از شما خواستن که حالا پیار حدیث رو قبول بکنید یا رح کنید یا مهداشتی کنند احادیث رو غیرم تحریم بکنید این نوعا اعتدار در طول اسلام حدیث به این بخش رو باز بکنید شما نظر در درمایی احادیث سیزکر شد چیه بعد عوالیس عوالیس و بعد اولیاد مهداشت رو مهدان تحریم بکنید بله دوپر از این برداشت حدیث سهی بخاری روی خود تو بره برای رساله در چه مسئله و جا چه مشکل در همین حدیث نبی من تقریبا چند شده چون تو انای حسنی بخری که بیش به 14 تا اعتراض هست 4 تا اعتراض برای الاسناد 8 تا اعتراض بر الاسناد دوازده تا به اعتراضه اگر یک از اعتراض بیش پرداخت شود دوازده ده... اعتراض ده دیگر مونده اگر رد بکنن اون 11 تا دیگه هم بگن تا جواب شما ا نه پایه‌ساز اون ما نه اینه که شما ولی تو ضایم داره اسناد بگیم تو بریم به من یکی یکی بحث گفتی ازاد اسناد مشکل داره که ما گفتیم مشکل بر طرفه هیچ مشکلی نیست پاسخ داریم از گفتار علامه علمای حدیث دیگه منده یعنی سه تا دیگه منده اتحاد بر اسناد و هشتا بر متم ما داریم الان چیزی که من بهش رسیدم یعنی از تراظت نمیشن. لطفا کمان دیگه را در مورد این حدیث. در حال به ابراز علامت حدیث. این حدیث معلق هوا یا کشیده نیست. معلق هوا یا کشیده میگیم. حالا کلمه می‌دانیم کی گفته؟ کی گفته؟ قبضه؟ امن حاج قطع کرد. این حاج از کجا این شده. امن حاج نمیگه. بیک گفته شده. یعنی چی قبضه؟ امن حاج قبضه. امن حاج معتبره. در مقابل امن رجب در مقابل امن در مقابل امن بیک قول معتبره. در مقابل مزید در مقابل مذاکستین از حدیثی قبضه نمیکنند. شخصی که سرانه را نمیشناخته. امن حاج داشت. سرانه را بعد میاد که گفته شده. خب کی گفته؟ نه حد گفته. تامان کتی گفته نه هزینه. میشه ثبت شده؟ روز دیگر بیشتر وعده داریم جامعه را شمی. اگر فاشیت که من و ترازت خوندم، اگر شما شما هنوز یه نیوودی مثلا من دارم، مثلا که توام نامه ها را تراز اگر فاشیت بود تو بخون. بیاید بدانیم که نشیوی طبیعی في معظم رباتی هستند که هاک الحیف البخار معلق هستند. این عادی نشیو. اگر شما متوجه میشید؟ متوجه کی داشت امن شیشون را ختم حالا تقریبا ده نمیش شیشون را ختم بودن از سفر شاروم گذشت ابن حجر به شاروم الان دیگه رفیع به قال شیشون ختم بنابراین در شیشون برای قابل است اعتبار در جامعه مولانا هستند همین این غیر یک فرد بلکه دیگه جامعه که اعتبار ندارن یعنی اونها به اعتبار این یعنی یعنی اعتبار دارند ولی تعریف جامعه در این حدیث بخاری هست اسماعیل ابن حربان من صلاح ابن جماع من تایید ان کیثیر ابن مناقیر عراقی ابن رجاء عینیه نه حجار تطبیح ما سفر آلغنی همینجا نوشته متصلش میدره نگه‌تن اونجا 4 15 تا که من نوشتم چند تا نقطه گذاشت کجا لبنویید چی هست اینا داد یعنی ای؟ ابن حزر مقابله زرق چه در مقابل, مقابل اینها چی هست این آیمی ایم چی هست شما چرا شما دلیل <سؤال> اینکه اعضراضشو وارد مادرین بگی، شو وارد نیست. ما ما وقتی گفتیم آلامای مسترای حدیث میگن معلق حدیثی است که باعثت نواشه اینجا باعثت نیست به شما نگاه میکنیم. ما مراقب مداخلات خصیم و ناتیکا هستیم. برای دلیلی هر چند استعداد. حال عایم فصل نیادی. خودتون بیرون اتراض وارد بکنید. پاسخ بدید. ولما از دارند نمیفه. بله. ولما از دارند نمیفه. من الان از دست دارم. خورداب دون او بله افعل بنا او برد ابن عردیش، کیجی او بلاً اردود تفات مسکر اطراوه به hinباني، لتأخوائم المطقradas بنامیر خورد یا اجرب به پیش؟ بنامیر اقوائم ندش بخونه ککه حورد اخوائی دخونه 돼ما هم ندها بخون من لی نه که اصلاً از قائل فعال تحریم مستقل بدانید که آن را از لحاظی داشتند اینو که قائل ده شخصا هم گفاد چه به که بپرسم حدیث صحیح بخونی چه مشکلی داره ما قرب کلوپال نداریم تو منو گفت صحیح من کار ندارم اینو گفت شما بگی چه مشکلی داره اینا خطا از اولش شما برا من هر چیزی لازم هر قاعده براتو چه مشکلی داشت شوفت اطلاعاته شما شما گفتید شما گفتید معلقه شما گفتید معلقه اینا گفتید معلقه انثریه بخونی خب کار میکنی با موسی چیکار میکنید با حسن نزوفیان؟ چیکار میکنید با این طریق؟ یکی نیست؟ شما دوست دارید از طریق عمار مشکل دارید. خب کار میکنید با این که بشروه بده؟ صدات، قدات، شروات این گونه. عبد عبدوه من از ذکر رحمان ابن ابراهیم و عیسی بن احمد. ما کلیمو به بخاری باشه که ما ما لازم نیست. آیا؟ چه لازم نیست؟ آیا لازمه؟ که یک حدیث، شما دارید بگی این حدیث پیش بخاری مشکل داره که معلقه ما گفتیم این حدیثی که شما بگید معلقه کسی دیگه تبرانی و دعالی جو نگیدونم تبرانی لیکوبرا و بیرحقی متصل رواید کردن شما میگید اینجا متصل نیست، چون دیگه متصلش داری؟ جایی با متصله، چرا بخاری متصل رواید نکرد؟ چرا بخاری متصل رواید نکرد؟ چون شما فکر میکنید متصل نیست متصل چرا اوز متفلید، شما تعریف معلق رو ندونید، معلق وقتی واسطه نواشه، اینجا واسطه نیست مشکل داره از لحظ علم حدیثی، مشکل داره تعریف معلق رو ندونید، معلق حدیثی که واسطه نواشه واسطه بین دو معلق حدیثی که بین دو شخص واسطه باشه یعنی ملاقات با همدیگه نداشته باشه بیار اسناد حج بکن این معلقه یعنی بین اون شخص و اون شخصی دیگر که داشروات میکنه مخاطب یک معلقه اون شخص معلقه کتابی مصطلح فارسی برام بکنه اول بنچار بالچار تکته و من دومین واقعا این معلقه شیخ پنج ذره دیگر پنج نفر از عیمه، امام بهیهقی از کبار عیمه شافعیه. بخاری بخوری محتاط باشی. داری چرا خوب؟ بال پرد داره قبول بکنی؟ بخوری محتاط باشی. شراب؟ شراب میگه؟ پاسخ بد. چرا بخاری بال قبول بکنی؟ بال قبول بکنی که معلقه بال قبول بکنی که معلقه چرا بخاری طبیعیه محله. طبیعی محله. قلمو کی؟ امن حاج؟ امن رجب؟ کی گفته؟ امن حام؟ خب تو یہ کلاس جواب ختم ہوا جب شوا میگی یہ حدیث معلق ہے بے شک میں سوال بھیگی معلق ہے ما بھیے خلاصہ خود میگی چرا بخاری معلق اورده ما به چند دلیل میگی یک یہ به دلیل اینکه امام بخاری همانطور کہ حدیثی که در دیگر احادیث امام بخاری چون در اول راوی بعدن مشتل دیده نه که احادیث اجرا به طور متصل بیار مثلا گفتن امام هشام نعما در آخر عمرش دوچار اختلال شده، شکی درش نداریم. ولی که این حدیث طبلن یعنی قبل از سال ادعایی شده باز که نه که ناسخ برای تو براتون میخونم. چهیده؟ امام بخاری اومده با صيغه رو باید کرده. غرضی که گفتی امام نکثیر میگه قاله را استفاده کرده. چون امام هشام نعما نبوده که داره خونده. یعنی تعبیب کرده. بلکه خودش از کتاب هشام نعما خونده. ازواب عرض منابله هست خونده کتاب هشام اما و هشام نعمار, نعمار تاییدش کرده بر اون روایت پس این دو تا علت اسم است که دلیل خاصی بیایید فسرمیشه ما اصلا میگیم یعنی اصلا برای مقابل میارید چرا مولد برقرار از کجا طرح الباری ابن حجر عقلانی الله کتاب همش اینجا مستند همش اینجا برای قومچی این که برق اون این جور جایی معقوله یا غیر معقوله؟ جایی معقوله یا غیر معقوله؟ نقولي، هي إن ابن كثير، فريد. ابن كثير لم يخالف في ذلك غير ابن حذن الظاهري والقرطبي، ن ن لم يخالف في ذلك في ذلك إلا بعض المغاربة، نجي على حذن قرطبي. قرطبي أمهد، لم يخالف في ذلك، لين جين حديث متسلل، داربخاري، لم يخالف. ابن کثیر میگه که این استراحه ما عنوانه، لن یخالف فی ذلك الا بعض المغاربه. بعض از مغاربه قبل حرف پرتغال یعنی اقوال اون من میگم که امام کثیر میگه امام میگه میگه حجر میگه نه میگه یا میگه یکی یا من گفتم در صحت این حدیث اجماعی اختلاف هاد آیا این اختلافات اعتبار داره نداره اختلافات بی اعتباره شما باید هو به حسابم. و خوبی را از ترسی علما میارید تاریخ، من شیخ در این مساله، در, ای ای در این مساله شدوزه یعنی شما باید درست ترسی علما میارید. که شما دیگه اثر واسه از چه علما ثابت می‌کنی؟ این اجماع نکونند خودت هر حاشیه علمانی اثبات قوله. اثبات قوله، این قولش با دلیل داره رد می‌کنیم یا با یا بدون دلیل؟ یعنی عرجی بخواهم در رو برده هم یعنی که نه اجماع خیلی کشیه اجماع چند تحریف داره بخواهم بردارت بخواهم از اینجا اجماعی که حول مختلف در اجماع چیه حول اجماع اینی که ادعا بشه در یک مسئله که حرام باشه یا تواجب باشه تصیل نیاد انکار بکنه اون قضیه و بیاد برسلاف اون حرفی بزنه در اون زمان برخاصله هم طولانی نشه و فاطله همچونلان این مدت زمان کوتاهی اگر کتولانی شد ازمار سکوتی حتی اعتبار همونطور که امام شافی و امام شافی میگه ازمار سکوتی اعتبار داره اگر فاطله کتولانی شد اگر ما فاطله کوتاه بود و کسی نیومد ازمار اعتبار داره شما نمونه برای ازمار شما میگید بعد از صحابیت مفقل صدی یک نمونه برای ازمار بخار دیدم مشکیدی؟ شما چونیم ن مسلمی اجماع یک ترفتاریه نه شنیده بودید؟ اجماع هست، نه اجماع هست، نه شنیده بودید؟ ما دلیل یکی نداریم. نه هست، اجماع هست. میشنویم به فرد، به فرد، به مثلا بالفرج. بالفرج. بالفرج. بالفرج. خروج بر خروج بر حکم نه هست، ولی که بعضی خروج کردن بعد مخواسته که دیدن عینی اجماع نخواهد کردند این یکی دوتا فلیس نیست در های مسئله. کنیدیم از هست که علما ناسهاد، اجماع نکندند. مثل علما. حالا در اصل اجماع اجماع دیگه نه، دیگه بود که مساله در در درمان ساعته 8 و 17 دفعه شدو کردیم و ارمانم که و 5 و که ساعت 3 ساعت یه رو به 3 ساعت و طبیعتم دیگه نبید شایر و ایران های جانم. حالا <متر> <متر> من اینکه تا روی درآمد، استفاده من در حال در از حالا یه که که گا با این کناسه در حدود صحبت های شیوخ حد رو هفتان دقیقه هست بله از فضیرهای هم که تا صحبت سلیت شش شایده فرصت برای خایون که به آماده کنن بر پس یه بمیشین فضیرهایی میشین ما یه رو نگیرید دیگه دیگه تا راحت بنابراین دیگه بهلا نه سلسله رو نظرها ساییده عذاب صوابه این بود بودوراقش کل حضور مثلا اساتید محترم اساتید محترم بحث علمی هست ادله نق میشه بالاخره پاسخ هست نیست من در این ضمن کتابی که می بینید آهنگ نوشتم بناظ دوست دارم که انشالله بعد ازقیق قبل از چاپش بدن خصوصا جناب دکتر این کتابی که تعلیف کرده در بحث آهنگ که اینجا در بحث مازن ارائه شد دوست دارم تمامی اهل علمی که هستن یا حتی اگر کلبه هامون یک دفتر در کتابخونه میذاریم اگر پاهمون نملغیده اگر اشتباهی کردیم اگر قولی را به کسی نسبت دادین که اشتباهه دوست داری ما رو نفی خطر ما را از جهنم نجات بدی چون میدونید دیگه بحث درو گفتن برای یک شخص بحث تقویل برای یک شخص بحث این که انسان بیاد بازن رو گمان سکت برای یک بکنه خیلی مسئله بزرگه دوست دارم که ما رو نجات بدید اگر در اشتباه و گمراهی بودیم اگر در این کتاب اشتباه کردیم اون با که در کتاب خونه هست دوستات الله بهش مراجعه بکنن و اصلاسی در نصایح خودشون رو مرمحروم نسازن نه شما مطلق موسیقی و خراب دیوایی از گزاواتی که جایزه ما گفتیم جناب سید نفس حدیث گفتیم که نه بر و اون جاهایی که شده دست فقط قطعصیش داده شده استثناء شده و اونم یا در روز شادی هست یا در روز اید یا در روز عروسی هست که شرع اجازه داده و گفته که رخصت همون درسه احباب استنباط کردن اینها رخصت شده همون که ما بگیم از برای که خوک حرامه، مردار حرامه قطعی هست، اشکالی درش نیست، میگیم هم همینطور حرمتشه مگر اینکه دلیلی بیاد از اون اصل حرمتی که حدیث در صحیح بخاری است خارجش بکنه مثل حدیث آیشه و دیگر احادیث که در را استثنان میکنه و حضار تحصیب برعالیت را استفاده میکنه فا این نها ایامعید استثنان میشه و این چیزی هست که علماء لغت و علماء اصولش اجماع دارن فا این نها ایامعید نهایت تحصیب و نهایت تخصیب بر این علیت تقرم اینها استثنان شدن و اینها فقط جایزند و در این جاها و در این روزها نه در روزهای دیگه نه به طور مطلق نه برای مردان بلکه برای دخترها فقط اون چیزی که شرم قیدش کرده و اونم اعلا فقط ده چیزی که رو رسم ندیده حالا قیاس گفتیم قیاس, قیاس در صورت درسته که علت قاسره منذبه باشه،اللات منذبه باشه،اللات منذبه باشه،اللات منذبه نباشه علت منضبط باشه علت اگر منضبط باشه قاسره در اون مسئله نباشه بله ولی که علت در این حدیثی که استثناء شده علت قاصره در. من اه اه اه اه و یا هنزه الله من شهر تاخيرات در قایات از قشقون کنم از سفر حسنه شنان که اشتساعته تمامی حد ما کردید در و اختلاف لا که این اختلاف رایح به هر بین مرد زن است که اختلاف و احتمالیش که در آمده با سیمون در هم بخوریم اختلاف و اختلاف هم می‌بینیم که رو به هم نمی‌کنه و شاید ما همایج جوری باشه باور دیگه اختلاف و هم داریم شاید تحمل کنی. بعد از قبول هست و تحمل. تمام رای او را جوهری رو برای من من تمرین نداشتم. وقتی دایی که باید. برای شما این کار دستاوردی این کار در است. وقتی برای این کار دستاوردی این که این برای هر جوابت ما با هم ترقدهیم با هم دوستیم با هم کاریم دوست داریم به این معایست مدرکن مسلمان و دشمنی نیشه برای این ما در بین بزرگان و علما هم بوده در بین کسی که مثل امام شاقی و امام احمد بوده امام احمد میگن که برای در, خیلی, در که تو خیلی از مصار سقیب با همون شاقی مخالفت گردن برایی بخشی که پسرش ریز رو گفت که میدونی شاخی مثل خرشید برای دنیا و مثل آب برای مرزون بود آیا این نجوت از دنیا شاری بودی بیدارت؟ رباهین اقبا از شاخی هم بودی با اولیسی میدید خیلی هم داشت اختلافن بودی از این درخی منادره نحنیشه اختلافن سامس اختلاف رایت و این باید نمیشه اختلافن که بین ما خودیات رو بجود و داور نهایی شما هستید. این شما است که نهایتا نتشگیل می در تبین اینجا بعضی کشتی میدید که نرد زمین نشد شما داور هستید و اینجا به تعداد آدمایی که نشستن داور وجود دارد سوازن چه چیمیم؟ من از از کشمال ها این جه که حتی و شروع خوبی 10 بارش برای چیزای دیگه خود من هم زن رو زهری میکنه زن رو به طور خلاق میکنه برای کشف دلیل برای دنبار دلیل باشه من واقعا من تاکید میگم به شورای خلا و مسئله مساله با رسیدن به این برنامه رو گفتم که شما اگه موفق بشی من در پایان کار در شیخ خلا اگه اونایی که در تیم صحبت لازممون کردن برای ما صادق یوزان هستند هر مجدد. مجدد. دو دو ما یه لحظه وقتی که با این جاک شما شده من یعنی مرتکب تونستم از دستش می‌برم. منی برام و آقا ما یادت است. ممنونم ازت. جات مورا. مامو آخر نشان میدم جواب لید برات نگفتم نظر شما این موسیفی رو نویز جان قرار نبود خلاف در حصورت شیخ در اطدای صحبتش رو به, به خودش حرام نمی دوند. اما خلالم به مطلق خودش نمی دوند در اگر می دهدن یه نه من دقیق جمله را به من مثلا می‌گفتن اگر کمک رو کنه بر جاعت خدا آدم کمک رو انسان رو بر تقواه کمک رو کنه انسان رو بر تارخه چیزی خوبی موسیقی که مثلا که مثلا سامو میداره، میدنه و از از اصاب پیانداش رو در آمانه و کزان یار میبره خب این موسیقی انسان رو باهم بگار حب رسول الله صلی اللہ علیه میدازه حب رسول الله صلی اللہ علیه زنده و به همین موسیقیگی اینسان را خدایی موسیقی سهیده موسیقی مادتدار موسیقی سهش موسیقیهای مدری موسیقیهای را از دلیا تیر می کنه همه چیزیه این موسیقیها به هیچ فرم در وجود تو سهله می و یعنی اینجا زمان مکان شخص مهما اگر موسیقی در خدمت حاق باشه خلاله در خدمت محسن باشه و این حک حکمش دست را اینه، حکمش دست را اکتش. در واقع منظورت که؟ به اکتش می‌گیم. به اکتش می‌گم. پیونگ کاتان رو پیونگ کاتان با که اون‌جا به اینجا به موسیقی برو. قرآن و دیگر رو حلامت از قرآن و من دیگه داشت میاد نگاه دل از نهازتون جرم باشد ببینید در اصلا در مناقره بخوابی شهره یه مثلا سایتونگی های نمیشی میاد در برای حدیقی دادی و ما در حالیند امیدواریم که با هم مناظرات در مذاهات مکبری داشته باشیم حتی اگر که ما در یک روح مخالف هم نداریم، باشیم یک نیست که مخالف بیاد بازی مکبر و ما از اول و امشال دو باهم رو مناطق نه رو مناطق ندارد بیشتر مخلصه. چهل از این ما در جرمان کنن. بزرگواران مدیران و, و مسئولین اجازه دادم که حضور داشته باشند اینشانه که فایله گرده باشند و این در حصورت دیناهایون دوست با کنند بیرون رفتند شروع نکنند به نهد شخصیت شیو و اونجا به خاندهار نظرهای این بوده منتظر کنند به این جاید نیست براند به نهده